وَالنُّنَّ اَلِلَا آيَاتِ مِنْ لِلْا الْبَابِ الـ اَلَّذِينَ يَذْفُرُونَ اللّٰهَ قِيَابًا وَقُعُودًا هُو جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ بَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا صُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّارًا رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وامن الظالمين من انصر صدق الله العظيم صلوا الله ما احسن قرآن بوانده اجازه جوانان جوان از از این را از انجام شد تکتا یک شوان رو به زمین شما سپاس خوزه از جنهای دکتر پردین مقاطر دو وقت را گذاشتم برای جوانان عزیز شوانان تقدیر رو تشکر میکنم جنوازه جنهای دکتر، جوانان شهرستان هستند در خوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و محیطیزیست دارم فعالیت میکنم در آخر روز فعالان اصلی این سه شارت ها موضوع در از کردن هستن و اصلافاً تلاشوی خیلی زیاد و دلسوزی های خرابانه در حق دوم از دوستان وزید تلاشوالیت زیادن ما شاهند هستیم و حضورشان آن باعث درگره میست نشست امشت میکنیم در دو تا موضوع که ورحال هم میبر اصلی ما که دستور کار هستید جلس ما هست تشکیل شورای جوانان بود که اتمن توضیحات لازم را کاهن داد. یه بخشی هم مربوط به بیان دردگاه که از طرق دوستان با جوانان نعزیز معمولا هست و دنامود این مطمئن پاسوک لازم را بین در خواهید داد. زمان که تنگ کردن دو یک و نیم ساعت بطونیم در مدیریت بکنیم ولی یک ساعت مربوط به جوانان هست نیم ساعت امره پاسوک و دکتر در نظر بگی بیشتر می کنید؟ پنج داره پاسک ب... بیان خیلی از مسائل و مشکلات هم بیشته و بعد از شکلگیری در واقع شوراه به نعمت از دوستان در واقع عرضهای شوراه می توانند در واقع شما را بیان بکنن و بگیری می کنند امیدوارستیم می کنید شما نشستم مؤثر واقع بشه و از حضور یکایی که شما مطمئنی که قبل زحمت کردید. تقدیه و تشکر میکنم. بله حاضر که وقت هم زیقه است. جلسه بعدی یا دکتر از اینجا از شروع کنید. که مطالبتون را بیان بفرمایید و مطالبتون را بایان بفرمایید. و مطالبتون را بایان شورای جوانان بحث اصلی را خانم سرحدی اگر ن عرض سلام و عدب احترام، خدمت همه دوستان و عزیزان و مسئولین و محترم سازمان منطقه وزار که با توجه به دقدقه ای که جوان داشتن، چند وقت پیگیر بحث شورای جوانان هستیم خیلی دوستان معتده هستن یعنی اکثر دوستان اطلاع دارن که بحث شورای جوانان از کجا شروع شده و به کجا قرار خط بشن شد یه مختصر، یه مختصر بگیر خانم سر ادیو بله چون بعضیت دوستان ممکنه در جریان نباشن بله بله بعضیت دوستان همه جلسات رو نبودن بله یه طای بله مختصری از افتدا بگید تا رسیدید بگید که ایک سال رو میمه پیش بود ما این پیشنهاد رو دادیم به عنوان دبیرخانه مشترک مشترکی های مردم نهاد که تشکیل بشه در <coughs> چابه با عنوان اینکه ما های مردم نهادی که تو حوزه جوانان فعال هستن بتونن به صورت مشترک کار کنن و بحث اعتبارات اینجوری نباشه که فقط مدیران دستگاه ها به صورت سلیقه ای در اختیار دوستان بدن همه در جریان هستن فکر می‌کنم همین اسکوپی کار کرد تو بحث شورای جوانان بعد از اینکه یه ذره بحث تریش کردیم گفتیم شورای جوانانی باشه که هر کدوم از جوان‌ها اون و هایی که برای ثمنهای خودشون دارن به صورت فردی هم بتونه کار کنه و دقدر مندی های خودشون رو حتی دقیق اجزا کنن بحث شورای جوانان از اینجا شروع میشه که ما میخواییم گروهی تشکیل بدیم از جوانان خود شهرستان چابهار حالا چه دانشجوانی که ساکن اینجا هستن از هر قوم و اقوامی هم باشه برای ما مهم نیست، حقیقتا شخصا، من چون این ما تدوین کردیم آیننامه این شروع جوان رو در وبسایتی که توی فضای مجازی فکر تو همه گروه های پیدا کرده، میتونین از طریق اون آیننامه ای که ما براش تدوین کردیم رو مطالعه کنیم و از خیلی دوستانی که صاحب نظر و صاحب سبک بودن ما خواستیم که در مورد این, آین نامه نظر بدن از اساتید دانشگاه کمک گرفتیم از دوستان هوزه حقوق حتی کمک گرفتیم بحث شورای جوانان که مطرح شد ما سعی در داشتیم که جوانایی که متخصص اصلا تو حوزه خودشون کار میکنن یه جوی کناره هم جمع کنیم برای همافزایی بیشتر و کارهای مشتری برای هم چابهار دیگه الان همه دوستان حیات... الان حیات خلوتی کل کشور خوده چابهار ما هر روز برنامه های مختلفی داریم اینجا برگزار میکنن حیات خلوت نه حیات اصلی، حیات خلوت حالا <تصف ü> امیدوار نیم باشه حیات خلوت, خلوت اونجا یکی یواشکی میدن همه نه ما حیات هم همونم حیات اصلی بزرگ گرفته میشه بهش میگن دیگه بحث کمیته هایی که در شورای جوانان مطرح شد متشکل از پنج تا کمیته بود توی بحث حوزه گردشگری و صنایع دستی به صورت مجزا بحث فرهنگ و هنر به صورت مجزا بحث زیست، عمران و صنعت و یکی دیگه از کمیته ها که بحث اشتغال زایی و سازی بود رو هم مطرح کردیم بر اساس نیازمون این کمیته ها رو ما تشکیل در وبسایتی که ترویج کردن دوستانای بلوچستان زحمتش رو کشیدن و وبسایت رو طراحی کردن ما حدود 120 نفر تا الان جوان داشتیم که ثبت نام کردن در این وبسایت در موارد مختلف و کمیته‌های مختلفی درش می‌خواست ثبت نام کردن تقریباً میشه گفت با, با همشون در ارتباط هستیم برسر حالا بر کاری که دارن انجام میدن ما منتظر این هستیم آی کردی بودن شما خودتون در جریان هستیم، ما 6 ماه پیگیر این هستیم که به صورت رسمی این شورای جوانان رو راه بندازیم و دوستانی که میخوان کار کنن در کنار هم برای اینکه واقعا جامعه خیلی خوبی داشته باشیم همه می دونیم من دیم همه آرمانی داریم فکر می کنیم برای رسلم به این آرمان یک نفر فکر نمیتونم فکر نمی کنم کاری کنه اگه همه با هم باشیم مطمئنا جواب با خیلی بهتری میده. اگه نیاز هست من این آینامار بازی جاهاشو بخونم اگه فکر میکنیم. آقا اجازه این رو برای آخر آقا ولی تو... فکر می‌کنم پرزنتو چون تازه با سمران صحبت کردیم تو بحث شورای جوانان همین دوستاشون اول دغدغه هاشونو بگن آه. یعنی من خودم جز اولین کسایی که در این صحبت کنم. این من توی مانیتور نشون می‌دم در نهایت آخر جلسه اگه باشه فکر کنم خیلی بهتر باشه بگذارم حالا دوستان حالی بس... من اجازه بدید مقدمه من بگم چون که شما با این اکثری که میگید همون اکثریه هم که با شما صحبت کردن یه اکثری از این اکثرا با من صحبت کردن یه اکثری هم توی تظاهر مجازی اظهار فضل و نظر کردن بنابراین لازمه که به یک گفتمان مشترک برسیم برای گفتمان مشترک هم لازمه که به حال بدانیم که در مورد چی صحبت می‌کنیم خانم سرحدی زحمت کشید توضیحاتی رو دادن همطور که اشاره کردن تقریبا یک سال و نیم هست که توی همین نشست هایی که داشتیم یکی از شاید همون نشستهای اول برای اینکه ما بتونیم جوابتمون رو درست تنظیم بکنیم و ارتباطمون رو مستمر بکنیم بنا رو این گذاشتیم که در یک قالب مشخصی یه نهادی یک ساختار شک بگیره و بتونیم این ارتباط رو به حال تداوم بدیم چندین جلسه تشکیل شد خب خیلی از این جلسات افرادی که مثلا در جلسه قبلی بودن و جلسه بعدی اومدن تقریبا تغییراتش از 70 درصدی بیشتر تا 80 درصد تغییرات بوده. الانم تو همین جنب هم باز من چهره‌های جدیدی رو میبینم که اولین بارشون هست در این جلسه شرکت میکنن بعضی دوستان یه جلسه اومدن، بعضی دوستان دو سه جلسه اومدن. برای اینکه ما بتونیم از این فضا بیاییم بیرون و یه مقدار روابطمون رو هم تعریف شده تر و تخصصی تر بتونیم دنبال بکنیم یعنی در موضوعات خاص بتونیم صحبت بکنیم این جلسه وقتی را دختی میگن صرفش یک ساعت و نیمه، یک ساعت و و یک ساعت و سی دقش و دوستان صحبت میکنن سی ثانیه هم آخر برای من میزارن من یک چیزی میگن بعدم هم از همه چی و از همه جا میگیم حرف هم همه تکرالیه بعد دوباره میریم یه وقتی دیگه یه فرصتی بشه و به یه دوستی. سبب خیر بشه. این دفعه دیگه خانم سرحدی دوباره هفته پیش اومدن و مدعی بودن که شما باور ندارید به شورا جوانان برای همین جلسه رو تشکیل نمیدید گفتم اینطوری نیست ما جلساتم مرتب برقرار دوستان هم همیشه مسائلش رو مطرح می‌کنم فقط کانال و شبکه پیگیری مناسبی نیست این یه مطلب که لازم بود توضیح بودم مطلب دوم این که رجب خود شورا ما بنا رو برین گذاشتیم راجع انتخاب افراد خیلی صحبت شد خیلی بحث شد بنا رو برین گذاشتیم که یک انتخاباتی برگزار بشه و از طریق یک انتخاباتی دوستان بیان و خودشون خودشون رو انتخاب بکنن ما نیاین سلیقه‌ای بر اساس نگاه خودمون تدادی که به حال به ما نزدیک یا دسترسی بیشتری دارن یا به حال به لحاظ ممکنه حرفایی که می‌زنن ما دوست داریم اونا رو بیاریم کنار خودمون گفتیم نه اگر بستر برای جوانان هست هر کسی با هر عقیده‌ای با هر سلیقه‌ای با هر نگاهی نقادانه، همراهانه، مشرقانه با هر شیبه ای که حالا خودشون علاقمند هستن در این جمع حضور رو داشته باشن و این بستر برای شنیدن های همه باشه خب برای این کار لازم بود که این انتخابات و این ساختار در واقع یک دویرخانه اجرایی میخواست و این که یک جمعی بیاد این کار رو انجام بده توی آخرین جلساتی که موضوع رو بررسیم کردیم برسیدیم به 6-7 نفر که عضو ثابت اینها منهای جلسه قبل خانم سرحدی بود گفتیم که خب شما بیایید الان این حتی رانوهایی هم کردیم که در دانشگاه درین نمردی دوستان زحمت بکشند یه فضایی رو در اختیارشون بذارن فرمی رو طراحی بکنم وبسایتی رو آماده کرده بودن قرار شد اطلاع رسانی از طریق کانال های مختلف انجام بشه و دوستان بر اساس علایق و سلیقه های خودشون در کارگروه هایی که تعریف شده 5 تا بود الان چهار تا رسورد دیگه دیگه اش گذشته که منم یادم نیست ولی در اون دستورالعمل اگر کنترل بکنید 5 تا مشخصه 5 تا محور رو تعریف کردیم گفتیم میتونیم محورهای دیگری هم بعداً اضافه کنیم اما در این پنج محور پنج کارگروه تشکیل بشه هر کدوم از این کارگروه ها به انتخاب خودشون دوستان اولیان ثبت نام کنن که در چه حوزه ای علاقمندن دوستان گردشگری در اینجا جمع میشن هنریه جا نمیذارم بعد از اشتغال تمام منسازی یک مجموعه‌ای باشند محیط زیست و بسای زیرساخت یک مجموعه‌ای باشند بعد از اینکه ثبت نام کردن، بین خودشون هر کدوم یک کارگروه رو انتخاب بکنن و از بین اونها افراد نماینده بشن پنج کارگروه بود پنج نفر بلاگه مثلا از سه نفر دیگه عمومی یا چهار نفر به تعدادی که باز منم تو ذهنم نیست اونجا دولت انتخاب دولت بشن و دولت موقت گیره و, و قرار شد که اینها بشن شورای جوانان برای همین مجموعه قرار شد دوستان زحمت بکشن این کارا رو انجام بدن که حالا اشاره کردن نمیدونم چقدر دوستان در جریان, چقدر جریان اون وبسایت هستن در جریان اون آیین نامه و دستورالعمل هستن چندت اون آیین نامه را دیدن نظر دادند و خوبه که در خود تدوین اون آینامه نامه هم نظرات همه دوستان رو داشته باشیم و با این ساختار و یا هر پیشنهاد دیگه‌ای که امشب به جنبندی برسیم اینجا بتونیم کار رو در واقع دنبال بکنیم. از این باب گفتم پیشنی ص اولی اینجوری که بخوایم همه حرف بزنیم خب هر کدوم بر اساس سلیقه خودش از یک ذابیه به موضوع نگاه میکنه. چیزی که در اون آینامه پیش شده تقریبا بعد از چندین جلسه بحث و, توادر و نظر و نظر برها گرفتن نظرات دوستان یک اجماع نسبتتا کلی به موضوعاتی که حداقل ما در این چند سالهشنیدیم اونجاادگرد هم اومده. حالا من پیشنهادم این هست که ابتدا کلیات و رؤوس اون و ساختار ساختار همی که کردم یعنی اول کار ثبت اول اعلام عمومی ثبت نام دوستان در کارگروه در رشته‌ها یا در هایی که میخوان فعالیت بکنن انتخابات در اون در واقع گروه و انتخاب اعضای اصلی شورای مرکزی اون گروه و از بین اون شورای مرکزی انتخاب برای شورای خود جوانان که میتونه نمایندگان اون کارگروه ها و تعداد افراد دیگه‌ای که باز راجع به اونهام الان میتونی نظر بدید باشه این مکانیزمی بوده که ما جنببندی کردیم و قرار بوده به این شکل عمل بشه من اتفاقا به دوستان به خانم سرالدین دوستان گفتم کسانی که میان گفتن آقا انتخاب براخره ما اینجا موندیم شما ما بیام انتخابات برگزار کنیم گفتم شماهایی که میخواد انتخابات برگزار کنید نمی‌تونید توی در واقع کاندیدا بشید خودتونم شرکت بکنید که قرار شد بعد از اینکه در واقع مکانیزم مستقر شد در زمان انتخابات واقعا اونایی که میخوان خودشون هم کاندیدا باشن و در اون حلقه ها باشن در واقع از تو این جمع نباشن و به حال خودشون رو کاندیدا بکنن برای اینکه انتخاب بشن این مکانیزم هست در مورد ساختار هم اون پشتکارگرو رو اگر ارائه بکنید و شیوا ها دیگه اون موقع دوستان نقطه نظراتشون راجع به این مشخصا بگن بعد دیگه حالا رو بحث دیگه صحبت بکنیم اگر موافقت و مدیریت زمان به شی خانم سعیدی درست شد رافتا سیستمتون؟ ها؟ خب حاضرانم بذارید من دارم ه تون تون کشش میدم که شما بیارید بالا من ببینم رو سیستم. نکنه درست مستندات رو؟ فقط لطف کنید رابطه این موضوع به یک گفتمان مشترک برسونید. بخاب شیوه نامه رو یه لحظه ببینید شما الان راجب به شیوه انتخاب بحث دارید. ما بحث. خیر. من راضی به مراحل انتخاب الان ببین ما مراحل انتخابی که در اون جلسات به جنبندی رسیدیم و کارگروه ها به انتخاب بوده بگید پیشنهاداتتون رو دوستان راضی به نحوه انتخاب بعد راضی به خود کارگروه ها صحبت کنید بخاش بسم الله الرحمن الرحیم ارزی سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان موزز پس کسب اجازه از ریاست محترم با جلسه و و کنم تشکر میکنم از ایزانی که در واقع دعوت رو پذیرفتند و بزرگ پیدا کردم. دکتر در رابطه با تعداد کارگروه ها من مطمئنم خیلی از دوست هم فکری نشده و خیلی هم فضای مجازی و در فضای واقعی خیلی مطارس بودند من بابطه اینه که دوباره اواشی ویجاد نشد مطمئنم این سوگیری های ذهنی طرف بشه من اگر الان از این دوستان بپرسم مطمئنن اگر بگم که دستاشون رو بگیرد بارا چند نفرشون متله بودن در راوته بار اینا این کارو بکنی چند نفر متله بودن چند نفر تو متله نبودی دستاتون رو بگیرد بالا ها متله نبودی ندیدید این بارا این بودی که شما های الان خب دوستا درصد نشد 50 50 پنجا خوبه گفتگو میکنه اشکال نداره گفتید قابل گفتگو است 50 50 میریم جلو این که همه دوستان هستند همین این دوستان این چیز رو دیدن خیلی بده که توی در این سن سال دارن بیان اشکال نقد میلا شریکه رو قراره یه بحث اینجوری جدل با هم نداریم دیدن نه دیدن نخوندن من گفتم چه کسانی آگاهی دارن از محتویات این موضوع بله منم دیدم ممکنه خیلی از این رو منم نخوندم اطلاع نداشته باشم می‌خوام گفتگو کنیم دیگه خب آیه بشکل لا. روشن شده دارم؟ بله هدف اینه که اینجا گفتمان مشترک هر گونه سوگیری هایی که هستش اینجا حل بشه این یک موضوع, موضوع دیگه اینه که دوستان اعتراضی که داشتن در رابطه با سایت من میگم اینجا یه پیشنهادی من داره من میگم ایت محسس مشخص بشه ایت بعدش برای عیت مدیره یا نمیدونم کارگروه اصلی حق نداره با عنوان ا که کاندیدای اصلی بشه این یک مثلا مومن مسلم بشکار به موارئ این هم اصلا حق ندارن به عنوان کارگروه اصلی بعدن انتخاب بشه این برای رفع سوگیری های ذهنی برادر من کفایت خواهد کردش خب باید فکر کنم همه موافقن کسی مسئله نداره منم هم همین اشاره کردم مطمئنم کسی غیر کاندیدا باشه بعدا باید از مجموعه الیگنات دقیقاً یعنی میتونه هم مجری انتخابات باشه و هم کاندیدا باشه یک ذهنیتی هم که دوستان دارن در دکتر اینه که مدیریت سایت بعد بروده مثلا اینکه مشتری از افراد باشه خارج از دوستان جوان باشه چرا سوگیری هایی که ممکنه ایجاد بشه مثلا من آقای پیشگان این حرفو نذاریم لطفا ببین وقتی جوانان خودشون به خودشون اعتماد ندارن بعد دوست دار با پیرمردا به شما اعتماد کنید نمیشه که می Mi, این صورت نه نه دکتر بعدن هم همین حرف میشه خداییش اشکال نداره من اصلا به بیشتر از 6 خبر دارم ده نفر شرکت کردیم ده نفرشون از یاران منن یا که مثلا پنج نفرشون یار من پنج نفر یار میگم آقای افسران اللہ آقا امید بلوچستان سری که سطرام بکنی 11 نفر ای no, اینطوری قرار نبوده باشه ببین ببین سایت خب معلومه که اطلاعاتون خیلی ناقصه ایشون ببین گفتیم ما گفتیم مثلا کمیته گردشگری 100 نفر 50 نفر 80 نفر هر تعداد نفری که شما دوست دارید ثبت نام کنید به عنوان عضو این کارگروه این کارگروه یک در واقع شورای مرکزی برای خودش میخواد استلااهم که اداره بکنه مجموعه گردشگری رو اون افراد توسط همین صد نفری که در حوزه کار گردشگری ثبت نام کردن انتخاب میشن بنابراین وقتی ما اینجا الان اعلام عمومی بکنیم همه میشنون که آقا برید تو سایت ثبت نام بکنید اتفاقا الان انتخابات همه جای دنیا داره میره به سمت الکترونیکی شدن و ثبت نامای شفاف که کسی حرف و حدیثی در موردش نزنه بنابراین وقتی که داره این کمیته ارایه که تمام منسازی بود آموزش فرناوری فرهنگی گردشگری معذزیس و عمران صند این کمیته ها ترکیبشون بود قرار بود در یک کمیته توانمندسازی ممکنه 200 نفر ثبت نام کنه در کمیته آموزش ممکنه 20 نفر شرکت بکنه اصلا ما نمیدونیم هنوز واقعا ال دوستان و علاقه هاشون چیست بعد از اینکه ثبت نام کردن بر مبنای یعنی در واقع من که میخوام مثلا در حوزه عمره و سنت فعالیت بکنم نمیتونم برم در, در توانمندسازی رأی بدم میدونم آ دکتر ما بحثمون اینه که مثلا من در توانمندسازی و اشتغال دوستانی که شو که واقعیتش رو قبول بکنیم اینجا چند قطبیه نه اینه که ما بگیم دروم یا همشون یه فکر باشد من این نوعی وقتی مدیریت سارتو بروجه دارم من میدونم که در رابطه با تمام منسازی و اشتغال چند نفر از دوستان من صفحه نام کردن و قاعدتاً کسی که بیرون میاد از دوستان من خواهد بود یا نبود نخواهد بود اگر از دوستان من نمیشه مطمئناً من میرم یارگیری میکنم بهشون احترام میده، یارگیری میکنه و دوباره که در نهایت اون کسی که بیرون بیاد از دوستان من باشه خب بفهمید نقطه نظراتتون ما چون بخاطه یکی طرف نشه بازم مستقی دارید؟ نه نه ممنونم خب مستجد. بقیه دوستان هم در همین راستا فقط راجب ساختار و نحوه انتخابات نکته دارم نکاتشون رو بگم بعد کار کارو شما اول چیزی چیز رو روشن کنید فقط تبر روشن فقط بعد بیاد جلوتر نه اون تغییر پوینتر برای کلاس زبان درست تبلیغ کنید کجاست و ما چرا نمی‌تونیم آنلاین یه دونه کلیب یه دونه چیز میذاره اینستا تا یک ماه غیبه دیگه خبری نیست یه گروه واتس اپی درست کرده خب ما خبر نداریم روز اولش ابلاغ کرده ما یه تذکر برای شما بکنم آقایونی که تو این جمع هستن همه به کلاس زبان ایشون بشن یه کلاس زبان واقعا یه جمعی درست کنید همه دوستان رو کنید برای آموزش زبان خیلی خوب آموزش میدن من بعضی از خانم دیگه شهریه پای مدرسه داره شیرو یادی هم به پای مدرسه شهریه ما میگیرین ایشون جوونی داره کار اون درآمدی سازیل جای دیگه داره صلواتیه نه برای این جمع رایگانه اولین خدمت رو به شعرهای جوانان ایشون میخواد بده رایگان برای این جمع یه گروه درست کنید آموزش جای دیگه هرچ آموزش میدید برای ما بذارید تو همین گروه بازد بفهم مجددن با سلام و اندرد نسبت به قبانی دوستان های ازدرد خصوص مدیر دموکراتیک منطقه هزار <تصفيق> <تضحنت> از این که نگاه دموکراتیک که نسبت به سازمان باستلاح شورای جوانان داریم چیز خیلی خوبیه ولی اینکه این سازمان از همون یکونیم سال قبلش که هر وعدیس شد شد شده تا علم کلان بوده و هست و تا وقتی که اون شفاف سازیش، اون سیستم شفاف سازیش مشخص نشه که اول دوست عزیزم جنب دکتر بشکر انتخابات و و اقلیت مؤسسش اما اگر هم استرکسیرات تختارات مجموعی شکستم نشه همین چیز همین میشه ولی اون عملگیراشو او نه خواهد داشت تا وقتی که اون افرادی که هفته حقشونه که دارن فعالیت میکنن از نشه که دیگه نتیجه نه داشت و یک انتقادی هم نسبت به سازمان دارم اونمی میخوام امی افراد بگم اینه که یکونیم ساله این شورای جوانان هنوز هم پاشکیل نشده نه منم مغازه‌رس شدند از خودمون سادار <تصفح> <تصفح> <تصفح> چون اصلا این مطالبه از سمت جوانان بوده در همه جلساتم من تاکید کردم گفتم آقا اگه خودتون بخواهید هست ادامه پیدا میکنه خودتون نخواهید نیایید نمیشود برای اینکه ما مسئله اصلی قد گرفتاری داریم الان از این جلسه بینی بیرون تا دوباره یک کسی بیاد بگا قا جلسه بذارید ما نمی‌رسیم به این موضوع اتفاقا دلیل تشکیل این این بوده که آقا در کنار گرفتاری‌های روزمره ما موضوع جوانان گم نشود و گفتیم هم تأکیدم کردیم خودتون تشکیل بدید دلیلی هم که به اینجا رسیده این جمع اومدن دنبال کردن من نکته رو اشاره کردم خیلی کلی ولی الان که بحثا باز شده بذارید بگم دوستان تو این جلسه چند نفر اولین بارشون شرکت می‌کنن اولین بارشون شرکت می‌کنن در حالی که این حداقل چهار چهارمین پنجومین جلسه هست، طولانی مدت ما داریم این خوب نیست این اصلا خوب نیست پس اینایی که امروز اومدن همه دارن حرفای جدید میشنوند این یک مطلب، ما میدونستیم اینقدر فضا سنگین میشه می‌رفتیم سالون بزرگتری، ما مثل جلسات، به هوای جلسات قبل بودیم که همین دوره میزم هم کامل نمیشد ولی امروز مثل که یارکشی خیلی سنگین بوده به اشکال نداره اتفاقا خوبه من استقبال میکنم از اینجور جور درباره حضور پر رنگ ولی خواهشم اینه که دوستان امروز اگر حالا یارکشی شده و اومدید برای جلسه بعدم باید بیاید تا نتیجه بگیرید اگر امروز بیاید یه حرف بزنید بازی رو به هم بزنید جلسه بعد که دعوت بکنیم دوباره همون 7 نفر بیاد ما با همونها تا همون مجبوریم کار کنیم من وظیفه من شنیدن صدای شماست پیشنهادات شما نکاتی که دارید میگید و بعد هم هر که میتونم خیلی هم یاد گرفتم انصافا از این جمع و از این نشست خیلی اتفاقات زیادی تو سازمان افتاده همین جشن که بر حال الان به این کیفیت داره برگزار میشه خوب یا بد که خیلی از دوستان معتقدن خوبه به نظر من خروجی همین جلسات بوده شاید مستقیما من نگم این مسببه نشست فلان هست اما به حال حرفایی که میشنویم نقطه نظرات دیدگاه ها انتقادات مباحثی که میشنویم در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها اثر گذاره بنابراین من خواهشم اینه اگر قرار هست که بر حال جمع دیگری انتخاب بشه اشکال نداره دوستان هیچ کدوم مدعی نیستن ما به زور ازشون خواستیم و خودشون هم چون تو همه جلسات بودن میگم خانم سردی من و فقط یک جلسه قبل رو نبودن اونم بعدا توضیح دادن که من اندن نیومدم که دوستان حرفاشون بزنم فکر نکنن که من چیزی دارم ولی بقیه دوستانی که توی جمع بودن خب این تکت در واقع چند خرد در میودن اومدن جلسات این یه آسیبه بنابراین به عنوان اولی است بله ما میپذیریم کموتور قبول ندارید امشب یه کمیته دیگه انتخاب میکنیم هیچ حرفی توش نیست اما دوستان مکانیزم رو صحبت بکنید آهای برادر عزیز ارسلان خان راجع به مکانیزم آیا با این شیوه انتخاب کسی مسئله دارد اگر شیوه انتخاب رو قبول ندارید انتخاب اول ثبت اول دوم سبت نام در کارگروه های مرتبط با فعالیت و علاقه خودمون سوم انتخابات در درون کارگروه چهارم انتخابات برای شورای مرکزی این شیوه است این هرکس نظری غیر از این شیوه داره بگید بعد میریم سراغ قدم بعدی که بهتون نتیجه بگید یک سوال ناظرش کی خواهد بود؟ قدر اصلی ازی برگذار کننده بود شورای کی خواهد؟ یک شورای نظارت تشکیل میدیم اونم شما نظر بدید. شما بگید ناظر کی باشه ناظر اونت مثلا خود سازمان یه سری افرادی که دوستان تایپ بکنن ناظر کی باشه بقیه دوستان راجع به ناظر نظر بدن نکته خیلی سوال خوبی پرسیدید اصلان نظرش اینه که سازمان بلابه چند نفر از دوستانی که تو این جمع هستن به انتخاب میکنی؟ و خودشون هم بعدش چیزی نداره نه دیگه نیست اونایی که اهل اجرایی کنن جا راجیب به شورا نظارت کسی نظر داره بفرمایید آه، اوکی خب اگر کسی نظر نداره میگیم سه نفر به انتخاب شما دو نفر به انتخاب من از سازمان موافقید پنج نفر ناظر باشن شما نکته دارید بله یک کلیاتی می‌دونم ولی در موردش ایش کنکاشی نه اگه بخوام به یه نتیجه برسن. توی بخص قبلی کریمون هم هم تا دخل چارت سادمانی شورای چیزی رو به اسم شورای نظارت تعریف کردیم که بر اساس انتخابات و اینکه اینجوری نبشه هر کی بخواد هر کاری کنه و کسی هم چیزی نگه. ما پیشنهادمون این بود که بلد مثلا شورای اسلامی که انتخابات برگزار میشه. دقیقاً با همون چارچوب با همون سیستم ما پیش بریم. وزرا تام حتی به نظر من اگه به شرط فرماندهیشون الان یه شهر و منطقه یکیه. فرمانداری رو منبع نظارت no. در کنار سازمان منطقه زا برعهده بین سه نفر از طرف دوستان که جزء هستی اصلی بودن، جزء هیات مؤسس بودن. چون من نظری که قبلا داده شده یعنی این چیزی بوده که قرار بوده به عنوان شورای نظارت باشه. خب با سه نفر از این جمع موافقید؟ یک مسئله هسته مسئله هیچ چیزی باید باعت... نخیر باید از جیب شون هم بزرم قرار نیست به کسی پول بدین توی شورا ها جنگ اینا رو شهر فعلا یک جای هم به در مورد برای اینکه خلاصه دوستان خیر میگرم باید آقای ترکش اعلام کو که قراره به کسی چیزی یلا حقوق بگی آواشنمی خب آقای حافظ عثمان رو فکر کنم به عنوان از یک داشتن اشاره میکردم به عنوان ناظر یک نفر ایشون نفر دوم حافظ زربابی حافظ زربابی کجاست او ارسان برو کنار دیگه خب حافظ زربابی، نفر دوم نفر سوم نه پیشنهاد خودشون هم بگرم خودشون هم اظهار تمایل بکنم که از ها کس کاندیدا است برای نظارت نه شما این بعد به من سردی کاندیدا بشی کاندیدا از احسن. و, من و من شهادت میدم که خانم سرحدی در این سه سال بیشتر از همه شما مراجعه کرده و واقعا دغدغه داشته و موضوعات اجتماعی و مسائل مردم رو دنبال کرده این رو من به خودم فرض میدونم که این شهادت رو بدم تحقیق میکنم حالا ناظر بیشی؟ خب سه تا ناظر آقای حافظ بلده ای آقای حافظ عرباوی و سرکار خانم سرحدی به علاوه جناب آقای چاکرزه ای و آقای آبرویش اجتماعی مهدی آبرویش کجا یک کن؟ آوشان ما یک گروه جونز خواب من از که بیس نفر جوانا خواب من دیر مردیم یک که چمیشا بعد ناظر بینه من روشان امرانو تنیده نا اشتو بند رباسا مرحبات نا صلا ای برکبه انتخابات شرکت کنه خوب نه ناظر سکر ناظر ناظر اکر رجب این ای سنفر اگه کسی نقطه نظری داره بگه نظارت که خوب فقط بحث صحت و سلامت انتخابات اون عمران هوطبیات تو یکی از کمیته ها باشه بعد ناظر انتخابات که برگزار شد دیگه میرن خونهشون میخوابت کاری ندارن شورا چی شورا با شرکت کنه بلی تو جب خب پس شما اگه میخواید انتخابات شرکت بکنی حتما نمیتونی نظر بدین راجب به شورای نظر. نظر شما وارد نیست خب پس شورای نظارت ما شد 9 نفر راجع بقیه موضوعات کمیته ها راجع نحوه انتخاب کسی سوال نداره نکت نظر و پیشنهادی مدیریت ساعتان را... ای دکتر هم اینجا راگیری انجام بشه با زنده انجام بشه راگیری زنده انجام بشه بابت موافقت با اصول اینجا ترکید راه نه برای شعران نظارت که دیگه تاید... چیز شد دیگه تعیید شد همه تعییدن همه دستارو ببرید بالا شعران نظارت تعییده تعییده کی مخالفه؟ مخالفه؟ شما نظر نظرت موترهایست یک گروه بایدون گیت جا؟ توجیه برایشی چیه؟ ما یک اپ پیگرم دکتر جا از برخشی یک دوست یک عزیز نظر دام من جلسه تا مشدر ختمانی کانده یک چیزی اما شخصی کندگی می‌نداشته باشد، کاملاً جال جام. کاموژال سه اثراً می‌گوید که یک سانگته یا که اورامانی رفیع یا مکاری بیلی گپا جامتیه. من تو را شما. من نه نه فهمیدیم. ساده به پیدا کرد. این هنرمندی باید هم هنرمندی نظارت برای نظارت؟ برای خب آقای مهدی او روشه هست یک نفر هنرمند کارد باید این جدگر؟ باکه او ترپه کندید بابا اوهوه که گروه کندید باید شورا نزارت نه توان بایدن اوز به کمیته بیمی آره بایداد ایشتر او هفنا برشتر نه سوستایی بیلی با هفنا برشتر امران احود اوه امران احود کسی که نه امید امید و از وصایم کنم امکانیش بحث شورای نظارت و انتخاب این افراد و دوستان ما درخواست بدیم هر کسی که نه, خواست انتخابات کنه بعد از بررسی صلاحیتشون بعد به عنوان شورای نظارت صلاحیت بعد همه بپذیرند فقط موهایی نیستیم که توی این بس بالاخره شماها بپذیرد. وقت گذاشتید نظر شما بود یک امتیاز داشته باشه این جمعی که امشب حاضر شدن در این جلسه یعنی دغدغه داشتن براشون موضوع اهمیت داشته که اینجا حاضر شدن یه امتیاز برایشون قائل بشیم که به بسل... حداقل اینه که دغدغه داشتن به سلامت انتخابات بتونن حرف بزنن آقای حافظ عثمان رو فکر نمیکنم کسی به هر حال و به هر حال جایگاه ایشون کسی شکی داشته باشه آقای چاکرزی هم که دیگه خوب بلاخره نماینده سازمان سرجب آقای اربابی هم از چناختی که من دارم اگر کسی ببینید ما اولین چیزی که یاد بگیریم دوستان تو این جمع تجربه کنیم امروز و به نظرم مقدمه خوبی هست حداقلش اینه که با خودمون صادق باشیم این به نظر من اتفاق خیلی بزرگه تو این جنب حرفامونو بزنیم از این جنب که رفتیم بیرون پشت سر همدیگه حرف نزنیم هر حرفی داریم همینجا حرفامونو بزنیم اگه دوباره خواستیم در مورد همدیگه حرف بزنیم جنب بشیم و هم همیشه ممکنه نباشم خودتون اون جنب این اولین تجربه کار مشترک هست ما راجبه یک کار گروهی تیمی و مشترک داریم حرف میزنیم اصل و بنیان کار مشترک و کار تیمی کردن صداقت توی جمع است حرفی اگر داریم دعوایی میخوایم بکنیم انتقادی میخوایم بکنیم حمیجا در این جمع نقدمون مطرح بکنیم انجا که رفتیم بیرون واقعا هممون محکم همون حرفی که زدیم نه این نظر فلان بود فلانینو گفت این حرفو من نشنوم، لطفاً تجربه کنیم. آقا رفتیم نشستیم به جنببندی رسیدیم که این اتفاق بیفته کی بود نظرش کی پیشنهاد داد سرجم آنچه که توافق میشه در این جلسه اون مبنای عمل باشه اگر الان کسی راجع به این پنج نفری که نام بردیم اگر نکته داره یا فکر میکنه کسی دیگری لازم اضافه بشه اشکال نداره پنج نفری میکنیم هفت نفر هیچ بحثی نداره من میگم پنج نفر شورای وزارت خوبه اگر دوستان دیگه‌ای لازمه بیرون از این جمع هستم فکر میکنید لازم اضافه بشن بگید اضافه کن. اون بچه نو بزن صدام خوبه کنم دکتر دوستانی که هستن اینجا در از تمام تعفا باشن مثلا توی بحث نظارت کسی نظر میده که اشراف داشته باشه به اون موضوع اون نظارت انتخابات فقط نظارت میکنه به هنرمندان نماینده میخواد که به نظر حرفی ندارم اما یادتون باشه شورای نظارت بر فقط سیستم انتخابات نظارت میکنه و بعدا اگر در خصوص اجرای آینامه نامه نکته‌ای داشت یعنی در موضوعات هیچ وقت شورای نظارت نمیاد در مورد برنامه هنری نظر بده برنامه هنری رو کمیته مربوطش نظر میده شورای حل اختلاف هستش بله تو شورای حل این نظارت فقط برای اینکه صحت و اون نگرانی که دوستان دارن که آقا انتخاب آه دقیقا همین ممی کمپین جوparat در رابطه انتخابات رو برگزار می‌کنن و بعداً هم اگر کسی اعتراضی راجع به نحوه عمل یا فرآیند شیوه‌نامه‌ای که باز به تصویب همه خواهد رسید در اون نامه کسی نقطه نظری داشت یا تخلفی از اون صورت گرفت شورای نظارت ورود می‌کنه وگرنه در موضوعات تخصص شورای نظارت حق ورود نداره اون شورای مرکزی هست که بازم از طریق انتخابات در واقع انتخاب میشن و حتما اونجا اون کمیته ها نماینده دارن افراد دیگری رو هم باز تصمیم میگیریم که در اون هم باشند اونجا تصمیم گیری میشه ولی در حوزه نظارت صرف هیچ دخالت تخصصی در هیچ کدوم از کمیته ها و یا در موضوعات و مصوبات شورا نخواهد داشت مگر اینکه تعارضی و تناقضی باشی به نامه این در واقع یه چیز خیلی عمومی و جنرالی هست ولی در این حال اگر دوستان نظرشون اینه که آه یه هنرمند باشه خوبه یه هنرمندن باشه ما مخالفت نده ایوب افشار میگه پیره جهولیست اشکال نداره ایوب افشارم باشه بیگه جان؟ چرا؟ چرا؟ نه شما عنوان شورای نظارت در تدوین آین نامه و دستور عملها میتونید همراهی بکنید کمک بکنید در فقط کاندیدا نمیتونید بشید اگر قصد کاندیدا شدن دارید بگید که حذف کنیم شما خیلی خوب بسیار شما هستید جز شعره نظارت کسی نقطه نظری داره؟ پس شد آقای چاکرزی، حافظ بلیدهی حافظ زربابی و خانم سرحدی آقای افشار تمام پنج تا موافقی به نظر من سلام ورز میکنم سلام من نظرش بشین که تک تک این مردم شما انی مشخص بودن یک یک نام میگره و هر کسی موافق دست برز بکنم من موشن بهتر بهتری برای همه پن نفر؟ پن, پن نفر تا دلم تو که حبری پش میکنم. بسیار آقای از خود شما شروع میکنم آقای بولیده ای به با... با اتفاق آرا، آقای عربابی هفتاد <تصفح> درصد هشتاد درصد آرام آقای عیوب افشار سرکار خانم سرعدی اتفاق آرا، نمیشه. خب پس این چهار نفر انتخابی بودن یه دونه هم که انتصابی بوده تکریفی آقای چاکرزی برای آقای چاکرزی که دیگه نمیخواد رعه گیری کنی یا مخواد رعه بگیری آقای چاکرزی رم نظر بدهی که فردا نگید برای خود بفهم همه دو دست میرم بالا آلیا دو برابر آراه هرگه شما اندازه تا برگردیم به سایز قبلی بدهیم و این سایز قابل قبول نیزیم خب این شورای نظارت شورای نظارت پس این رو این دوستان دیگه فردا کسی نگی من این رو ندیدم این فرندفر نفر آی رو میخونن نقطه نظارتشون رو هرکس نقطه نظر داره به این شورای نظارت بده پیشنهاداتشون رو و بر مبنای تصمیمی که این شورای نت... دیگه همه اطلاعات ما رو نظارت رو یک کمیته اجرایی مثلا انتخاب میکنیم شورای نظارت بر کار اون کمیته اجرایی در واقع نظارت خواهد کرد. و هر مرجع حل اختلاف ما فعلا تا بعد از شورا تشکیل میشه و دستور آمده تصویم میشه شورای نظارت. خوبه؟ آدی. بیسی را جلسر کی میمیسه؟ با آقای بارکزه یمینیسه. خانم سرحدی و آقای بارکزه یمینیسه، خانم خیلی خوب، قدم بعدی چیه؟ کارگروه ها، آدی. راجع به عنوان کارگروه ها بیایی صحبت کن. این ساختار کاربوروهایی هست که پیشنهاد شده. آه... بزنید بزنید بزنید. بله راجع به هر کدومش میتونید نظر بدید میتونید ما... کمیته جدیدی اضافه کنید میتونید هست کنید میتونید تلفیق هم بکنید. ما یک ظرفیت بسیار آه... خوبی در دارید. تو ورزش دارین. فرهنگ. تو فرنگی. گردش گردشگری بکنم ورزش اونجا دیدین درسته؟ بله. این یک موضوعه. موضوع موضوع هم در رابطه با اه... کمیته مجزا بود وردهش خیلی بهتر بود چون که جوابا اون تاثیر بی داره ورزش فرصت ورزش ورزشکارام بله خوب موافقم من موافقم بقیه دوستان موافقم ما پیش بینی مون در اون ترکیب اولیه تو کمیته فرهنگی گردشگری بوده یادتون باشه دوستان نباید خیلی تعداد رو زیاد کنیم که بعد نتونیم کار بکنیم گسترده کردن موضوع هم خیلی زیادش کار رو دشوار می‌کنه پیش بینی اولیه که انجام شده در کمیته فرهنگی گردشگری بوده اگر که دوستان استدلالی دارم من فکر میکنم در همون کمیته فرهنگی گردشگری جاش خوبه اگر نظرتون اینه که چون ورزشکارا که وزن خیلی بالایی هم دارن همه البته روحیا همه ورزشکاری ولی شما تونا ورزشکارا رو دوست دارین مون تا اون جمعی که خودشون ورزشکارن تعدادشون هم در چابار خیلی زیاده اگر موافق هستید در همون جدا بلند کمیته باشه یا در همون کمیته فرهنگ گردشگری باشه نظر بده دوستا هم باشه هم مجزا نیستن این اتفاقات توی چاواخه آره بعد گردشگری هم داره ورز کارای انچه نماینده‌ای نداره چرا هم نماینده هستن <تصفيق> <تصفيق> جدا باشه؟ خب انتخاب بذاریم جدا باشه بقیه دوستان؟ اونای که ورزشکارها رو دوست دارن؟ آقای نارویی. جدا باشه؟ رو خیلی دوست دارن، اخلاقش هم ورزشکاری؟ رایگیری دستی انجام ده؟ آه؟ موافقیت که کمیت ورزش جدا باشه؟ دست به بگون دیگه قرار شد دست ببرید بالا سخت موافقین تفکیک کمیته ورزش خب کمیته ورزش اضافه میشه دیگه یه کمیته اجتماعی باید دیدانش شود نه همه یاد نکست باید باشه همه موارد اجتماعی هستم، حضور این دکتر مثلا اینه که موضوع آموزش کانون یا ورزش هواجغدگی می پیگیری سازمان شگیری سازی اشتغال آموزش مسائل فرنگی گردشگری همه موضوعات اجتماعی. مثلا ما این, این ماهیت و ذات این شورای جوانان اجتماعی. اجتماعی رو تفکیک نکن. معرفیدم. اره. باشه. اگه؟ کونته زبان انگلیسی. شما ایتالیایی که انگلیسی؟ اونایی که تو منیکووزه سلامت دارن کالج کرنت کلون. سلامت. می تذیس محتزیس با... آموزش آیا دکتر آموزش اتامان منسازی هو سلامت های دکتر آموزش اتامان منسازی تو حوزه سلامت بحث بس کنیم می گردشگری با گردشکری ادغام می کنیم می تذیس با گردشگری ادغام بشه بعد یه دونه سلامت اضافه بشه آه. آموزش و سلامت آیا دکتر بهداشت آموزش بیدارش. سلامت و اتامان منسازی به سلامت بهداشتی سلام به این پوستر رو در نظر چطور میشه اضافه کرد؟ سلامات. به درستانم. اونم قصد فقط به. بل当たり فرهنگی هم داره. همی بس پایانيه منظورم، است. اما آخه ببین مسائل فرهنگی رو ما هم یه مرزبندی بین این کمیته ها کار سختیه. یعنی شما مثلا موضوعات گردشگری ما موزهات گردشگریمون عمدتاً گردشگری فرهنگی هم اینجا. تفکیک کردن اینها کار ای نیست، بعدا توی اجرا هم دو مسئله میشه. یعنی من یا اونایی که با هم هم پوششن، مثلا امران و صنعت تکریفش روشنه محیط زیست مشخصه، شما اگر بیایید فرهنگی و گردشگری را از هم جدا کنید موضوعاتون خیلی، من چرا اجتماعی را قبول نمی کنم؟ چون همه این موضوعات اجتماعیه فرهنگ فرهنگ بارن فرهنگ بارن فرهنگ بارن مگر فرهنگ و هنر رو فقط به معنای هنر بدونیم؟ نمیشه تفکیکش کرد کرد؟ بعدا هنرمندان مددهی مونار میشن که چرا یک گردشگر اومده اصلاس کارگروه ما رئیس ما شده؟ اینجوری باشه شد باید دوازه تا کارگروه تشکیل دادیم اصلاسه چل تا کارگروه باید درست کنیم درست پس پیشنهادتون اینه که فرهنگی هنری جدا بشه گردشگری جدا بشه گردشگری و موتزیست دارید گردشگری و زیست رو موافقیت با هم بذاریم مرتبط هم مرتبط, مرتبط <Warri> <طف nice> گردشگری پس گردشگری میاد هم سردداری می نویسید <ت People> گردشگری و زیست فرهنگی و هنری همین الان میتونید تو این چارت اصلاح کنیم رو پاورپوینت نیست مگه خودت برید پشت فرموشید بیا اصلاح کن برو بعدی دیگه دیگه بفرمایید بفرمایید اگه بزنید دوستانی که جابجا بشید بشید میکروفون نه میکروفون مخاطب شما ما دوست داریم نشسته شما سوال بپرسید جلسه بعدی رو تو اون سالان بزرگه میزاریم؟ بسیده هیچ که پس پس بزنیم کمیتر رو آخر جلسه اصلاح کنیم. بحث میشه بشون. حقوقی اون تو همون شورای نظارت حقوقی تو نظارت باید تو شورای نظارت قابله تشکیل دهید؟ دفتر جمید کومیته توامنطسازی و اشتغرصایی خواه نخواه با جامعه در ارتباطه میشه اجتماعی تنمید؟ در واقع کلن و همه این کومیته ها یه جوری با مردم و با جامعه در ارتباط هستند درزا ما یک کومیته حقوقی برای حمایت اینا لازم نهید چون اینا خواه نخواه دو عضو دو عضو حقوقی رو خارج از کمیته ها میاریم تو شورای مرکزی خوبه دو نفر حقوقی به عنوان عضو اینا کمیته ها انتخاب بشن یک در واقع نمایندگان این کمیته ها میان توی شورای مرکزی درست؟ اینجا توی ساختار شورای مرکزی هم بود قانون سردی کجا شد؟ نداشتیم یعنی همه اعضای کمیته ها هر چی انتخاب میشن میشن شورای شورای جوانان میشن همشون اون دولت موقت رو داری آها یعنی مثلا کمیته توانمندسازی منسازی وقتی انتخاب میکنه مثلا میگین نهتا تا عضو داره نفر اول و دوم میرن شورای مرکزی بقیه تو کمیتن خیلی خوب پس شورای مرکزی میشه نفر مثلا حالا بعد که نهایی شد میگین چند نفر از هر کمیته میرن شورای اول و دوم مثلا برن شورای مرکزی؟ ما بقی تو کمیته میمونن و اونا هم البته عضو کمیته هستن ولی نماینده کمیته تو شورای مرکزی میشن توی شورای مرکزی دو نفر هم به نظر من اه، اه، یعنی دو نفر شخص حقیقی که جداگانه کاندیدا میشن به عنوان افراد حقوقی باشن که مثلا تو مسائل حقوقی کمک بکنن بشون حتی هم یادتون صحبت کردیم گفتیم که جاهایی که خلأ داره این شورا یعنی مثلا موارد مربوط به حقوقی که در اتفاق میفته سازمان منطقه آزاد قسمت حقوقیش اینو ساپورت کنه برای ما فکر میکنم به خاطر تخصصی تر و اینام هست چون با چارت سازمانم در ارتباط هست قرار شد این خاله رو اینجوری کار سازمان منطقه آزاد اگه یادتون باشه مو اخر آره آره. آره ولی من فکر میکنم خود اینام هم همین یه نفر اینا میخوان که بره حقوقی ما حرف بزنه درسته یا آدم حقوقی نظر ما خوبه پشتاد خون خدا راه خدا, خدا. خدا. پلیس دکتر خوبه الان خیلی وقت انتخاب بشه نه این دیگه انتصابی انتخاب نیست انتخاب انتخابیه دوستان حقوقی باید کاندیدا بشن این هر کسی که رأی آورد میاد با اون منصب حقوقی اونجا یا اگر می‌خوایدم انتصابی باشه که یا آدم مثلا با باد سابقه و کارگروه که نیستین فقط بگیر می‌تونید چه جور یه نفر باشه میخواید انتخابی باشه حقوقی یا نه انتصابی باشه جان انتخابی باشه. بعد میانه یکسی ترکش طرفدارش میشه و ات کلی رای میاره و اتنسان فقط لیسانس حقوق داره آگر افتارتون میکنه. خب، ایسا ها، شوار هم من را بودم. خب، پس یه نفر هم حقوقی. پیشنهاد خیلی خوبیه مهمون. دیگه؟ در رابطو با کارگروی دانشگانی فناوری چی بود آموزش فناوری اسم اون نوشته بود دانش فناوری چیز دیگه است تو همون مشترک با خودتون حل کنید دیگه ما نمیتونیم <تصفح> الان میگه استارتاپ بعد میگه نمیدونم فن فنام یکی میگه بعد ساختار بعد در شما راه اندازی تو بفر... حوزه آموزش شما اونجا ذیل اون آموزش و فناوری میتونید استارتاپ رو قرار میدید استارتاپ ها و دانش بنیانا و اون منفین تک ها و نامین همه این چیزهایی که دارین میگین اره همه رو بررسی حالا توی عنوان میتونید دانش بنیان هارم ذکر کنید ولی تو همون کارگروی همون روزش فنناوری باشه حتی ما توی ریاست جمهوری یک کارگروی نسمه کارگروی دانش بنیان داریم؟ این هم تو همون فناوری و سه بذارید که منظورتون دانش بنیان باشه بیشتر از سه نقطه خب بیگه تو اناوین کارگروها دیگه بحث نیست؟ دوستان اگر کسی نقطه اگر راجع به کارگروه ها شورای نظارت و کارگروه ها نظری ندارید تقریبا ما موضوع بستیم فقط میمونه کمیته اجرایی کمیته اجرایی رو چطور انتخاب میکنیم کمیته اجرایی انتخابات شورای نظارت نظارت میکنه بر کار کمیته اجرایی در واقع دولت موقتیتون میشه بیان دولت موقت رو چطور انتخاب می‌کنید دا یه پیشنهادی مطرح شد اونجا گفتیم خانم شورای هیئت مؤسس فکر نکنم خود مؤسس شورای هیئت مؤسس نظری داره مجری انتخابات باشن مجری انتخابات دور اول و خودشون هم نمیتونن کنن خودشون یا نحوه يه انتخاب این میخواهید همین شورای نظارت بعدا فکر کنه یه پیشنهادی بیاره که دوستو و بریزین السیدی میخواد اگر کلیاتش حالا توافق کنید خوبه ما کمیته پیشنهاد اون چی بود خانم سرندی همون دولت موقت دولت موقت اولی که که بودن هم 15 نفر اگر یادتون باشه با بله. دولت موقت باشن تا زمان برگزاری انتخاب. بعد که انتخاب. اونا تو انتخابات شرکت نمیکنن یا اگر خواستن شرکت احنا. بکنن در زمان انتخابات استعفا میدن ولی افرادی که مجری انتخاباتن کاندیدا نمیتونن باشن اوکی یه ظاهر نظری چیزی؟ انا این همه قادی داره، همه سکوت کرده که انتخابات رو برگذار کنه؟ دکتر خیلی راحت میشه وقتی که ایام انتخابات طرف بروم استعفا بده در قبلش هم میشه دولت ما لقدر بعدش هم بروم خیلی دیده استعفا ها بود نه زمان داره، زمان داره استعفا رو خلان هست بود بهتره. ببین دخالت که بخواد انجام بشه بید سیستم خیلی شفاف محدودی هستیم و ببین من میگم کسی که میخواد خودش کاندیدا هست و رنگ میخواد نمیتونه در تیم اجرایی باشه تیم اجرایی وقتی تقویم انتخابات شروع شد الان مثلا ممکنه دوستان خوب انرژی دارن توان دارن تجربه دارن کمک میکنن به حیات اجرایی بعد که رسیدیم به در واقع شروع تقویم انتخابات یعنی ثبت نام شروع شد اگر میخواد کاندیدا بشه استعفا بده. اگرم خیلی چیزا آهای چاکرزی نظرتو چیه انتخابات رو انتخابات مثلا تیم از سازمان برگزار کن. اینجوری هم خوبه. دوستان مثلا مدیریت اجتماعی سازمان بیاد انتخابات رو برگزار کنه موافقی؟ چند بسترخبه. تا جوان عضوش باشن آیدیشار. چند نظارت دارن دیگه جوانات که نماینده جوانات در نظارت هستن. اینجوری دیگه هیچ سختش نیست برای کاندیدا شدن یا نشدن دیگه خیلی نگرانی ندارم. انتخابات رو سازمان برگزار کنیم. خیلی خوشگل می شه. ولی نه, فراخان فراخان نه نه نه فراهان نیست نه نه دیگه نه خود سازمان اجرا بکنه دوستا موافق باشه یه کمیته خوبه. بس خوبه. تشکیل بدید تا مقدمات رو فراهم بکنه ثبت نام و این کارا رو انجام بدن همه کارا که شد موقعی که تقویم انتخابات یعنی میخواستین شروع کار انتخابات بشه بدن دست مدیریت اجتماعی سازمان چون اگر سازمان بخواد ثبت نام‌ها و کارهای رو انجام بده بعد گرفتاری بعدی شواهد خیلی بیشتری دارن دوستان فکر می‌کنن علام مثلا خودشون می‌خوان قنداب شدن خودشون نجات دادن ولی نمی‌دونن گرفتار سازمان شدا یعنی چی از من بپرسید خب اجرا به این ماهبیه انتخابات اون رو شورای تأیید می‌کنه اگه بتونید سامانه درست کنید الکترونیکیش کنید که خیلی خوبه اگر الکترونیکی میدونید سخت یک روزی رو مشخص میکنیم بیان کاغذی راه همین اون چرا کاغذیش تو داد محدود میشه سنتی کردن آره آره باید مشخص بشه سنتی بشه آره یه تقویم و برنامه‌ای رو تعیین بکنه و بعد بیاد انجام چه. خب زمان رو چی پیشنهاد دارید یک ماه دیگه برای بیشتر دوستان این مبهمه آیا این شورا رو فقط همین جمع میتونه انتخاب کنه نه. یا کل جوانان منطقه نه کسانی که ثبت نام کردند در اون کمیته های ما فراخانی. یعنی پذیرفتن که عضو این جامعه باشن شما ببین ما یه فراخان عمومی میزنیم و کمیته‌ها رو اعلام میکنیم هرکس به, عل... به سلیقه خودش و علاقه خودش عضو یکی از اون کمیته‌ها میشه اون کمیته‌ها وقتی که عضو میشن یه شماره سبدیه شماره‌ایش در واقع عضویت بگیرن توی رای گیری با اون شماره عضویت میتونن رای بدن اینجوری نمیشه من فردا بگم خواشنگ بزنم همه چرا اونا خواشنگ بیان من, من رای موافقیم با البته با یک آیا بعد از اطمان این جلسه، این موضوع مثلا می خواهیم بکنیم برای کل جوانان شورای مرکبی رو اعلام بکنیم برای کل جامعه که آقایان فیلانی و فانو هستن ما مطمئنم آمار سبتون همون خیلی می رو بارم چی رو شورای؟ یعنی این موضوع، این روز به این موضوعاتی که مطرح شده این جلسه این جلسه منتشر میشه بله منتشر میشه نظرم اگر موافقت یک کانال درست کنید الان یا دارید کانال خانم سرادی خب این دوستان الان یک فرم بدید ثبت نام اسم و شمار تلفن همه دوستانو بنویسید گرفتم. شماره تلفن ها رو, رو همه دادن دوستان همون عضو اون کمیته بکنید اطلاع رسمی از طریق اون انجام آیه یه ای پیشنهاد دارم آیه یک پیشنهادی راجع به شماره شماره تلفن ای رو بدیم اعلام بکنیم شماره ها بهشون پیامک بدن با اسامیشون یک بانک اطلاعاتی تشکیل میشه که بعداً میخوایم ازش استفاده بکنیم اگه امکانش هست دیگه به نظر من دوباره کاری نکنیم همه دوستانی که تو این جمع هستن توی سایت ثبت نام کنن شماره‌شون رو بنویسم بعد میشن عضو باون... احسن این نشانه خوبی اینجوری خیلی بهتر آدرس سایت رو اعلام بکنید از دوستان که عضو کمیته میشم، حالا بر اساس یه کارت موقت برای اینکه تو انتخابات شرکت کنن داشته باشن یعنی که آدم از بیرون دیگه قرار نیست بیاد بله واسه ثبت نام کرد ثبت نام می‌کنه کارت موقت برای شده چه فرست اون کارت بتونه در انتخابات شرکت کنه حالا یا با کارت عذر چه اوز... رای بده بسه سایت الان تحت فعال ما سایت رو بر اساس همون که کردیم آی بلوچستانی خودشون طراحی کردن آی بلوچستانی خودشون مدیریت میکنن منتها شورای نظارت بر سایت هم نظارت می‌کنه یه یوزر پسورد در اختیار ما آره شورای نظارت نظارت می‌کنه بر کار سایت دیگه آدرس سایت رو آدرس سایت الان رو LCD وصل بکنین نشون بدی ما دوستانو شماره ها رو بزاره. همه رو عد بکنه که و ساعت دو خانه رو بزاره. آدست سایت هم اگه داری تو اون نشون بده. بله چش. اصلاحات درست هاوی من آقای ترکش نداریم. بگم نگیم. به وحشت ترکش من تا دوست داری. ترا دوست داریم. ترا نامه گیریم. منظور یه دیگرم. دک و دیواله که امتظارم. تا سر پرم. دیگران زهر روانی باید باید به تو خب تمام این موضوع؟ حالا هرچه دل تنگتان میخواهد بگویید ولی به ترتیب اول اول از زراند از باری ساعت جناب دکتر، یه نکته رو میخواهم ارز کنم مولایی هم که همی که سر ما جاباری هم میاد محومته یعنی که به غایغه بومی میگن شما برین شکار کنید ما قامیتون هستیم بعد تراله رو میندازن تو دریا بعد میگن ترالی نیست زدم بعد میگن ترالی هم نیست ما هم تو دریا میریم وای نیست الان ما وضعیتمون همینطور شده، ما مثلا فعالیت های و اجتماعی فهدا ناموزشی در این بعد سازمان میاد به جای اینکه انجامان های بومی گروه های که دارن فعالیت میکنن رو تقویت کنه، حمایت کنه میاد به گروه های دست یاری به ماها، البته به هیچ دست یاری خیر کسی نداده، حمایت میکنن و اونا به جای اینکه مثلا به ما ماهیگیری یاد بدن جو های نوپای مثل ما یا مثلا گرایی مثل ما که دارن فالید میکنن اصلا نگاه نمیکنن سمت ما اصلا سمت ما هم نمیان و کارا رو میکنن و به صورتی سران پیمانکاری و پشتشون هم نگاه نمیکنن نمی نمیرن و این میشه چارتا ماهی که فردا روزشم میخوریم تموم میشه میره الان من گم اگر این شورا ماها میخوان کار کنیم و از شورا رد بشیم اینا رد بشیم پ چار کار انجام بدیم که حمایت بشیم ولی اون ترالا رو میکنیم چکار کنیم خب نکته خیلی مهمه دیگه دوستان تو این زمینه اگر کسی نقطه نظره داره بگه بر من یک جواب آی بوله دی. چند مشکلاتشی که این دستانداز که جتگوان تقریه ایشانی <تصفح> <تصفح> <تصفح> چونها آیه صحیقه مزنی ماشین سواره هردین هم ماه وجه هر ماشین غازه من ماشین چیر کلنگ بجگ ما, ما هم آن... که بزنیس ماشین سواره وقتی رسیم من جنده سر لگی سر باید شما جا پیگی بیکنه خوب نراجب یه موضوعی که ترال ان اینکه سواگر هبری هم ها. ها؟ ترال این؟ هره خوب خوب دیگه اولا آقای ارسلان عزیز ما در اقیانوس زندگی میکنید بذطرالاپیا چه اشکندر جای دیگه ست تنگ نمیکونن اقیانوس انقدر بزرگه و اینقدر جای کار زیاد داره که هر کسی بیاد به نظر من جای کسی رو تنگ نمیکنه این یک نکته نکته دوم ببینید ما قرار هست که اینجا تمرین کنیم به سری کارهای مشترک و گروهی و ایده هایی که در میاد و با هم اشرا بکنین این نیست که هیچ کسی دیگه نیاد دست یاری به دشت یاری من که نباشون نسبتی دارم و نه ارتباطی دارم ولی خدایش از همه ما بیشتر کار کردن که موقعی که شروع کردن نه یک جمع جمعه دانشوی دانش بودند که اومدن با یک اردوی جهادی و بعدن تصمیم گرفتن بیان در بوزه آموزش کار کنن و اون حلقه اول با ماهی نفری بیس هزار تومن پول گذاشتن سه تا مدرسه ساختند. چون فرمودید که پیمانکارید، این هم خدمت رو نعرض بکنم. قیمت‌هایی که این دوستان دارن کار میکنن الان از قیمتهایشون قیمت بگیرید. الان ما باشون قرار داد. بریم دارم مدرسه میسازن. قیمت اینا رو هم سال کنید. قیمت نوسازی مدارس رو هم سال کنید. قیمت خیرین مدرسه ساز رو هم سال کنید. اختلاف خیلی فاحشی دارم. من اینا رو چک کردم. اینا نگاهشون پیمانکاری نیست. منتا چون دیدن که مجموعه های دیگری که دارن میسازن قیمت تمام شدهشون خیلی بالا هست، خودشون تصمیم گرفتم بیان بسازن. من معتقدم به عنوان یه سیاست این رو. هر کسی خواست کمک بکنه ما دستشو به گرمی بفشاره. نگیم آقا شما بذارید طالب شما ما شما نیاید بذارید ما انجام بدیم. حتما اونها تجربیاتی دارن، حتما اندوخته هایی دارن، حتما اونها توانمندی‌هایی دارن، میتونن به ما کمک کنن. وقتی کنار هم قرار بگیریم، تمام انرژی ما بیشتر میشه. بله، حتما در موضوعات تخصصی که مربوط به این جا ماست، مثل هنر، مثل مسائل فرهنگی، مثل نمی‌دونم موضوعاتی که بالاخره تخصص اینجاست، زاده اینجا هست، حتما من با شما همقیدم که این دوستان باید پیشانی باشن و این جمع جلو باشه. ولی در مورد اینکه مثلا الان یک کسی بیاد مثلا به دوستان حالا از هنرمندا من صحبتی بکنم مثلا الان در حوزه فیلم سازی خب به نظر شما مثلا یک فیلمساز ملی بیاد اینجا یک فیلم راجبه زیبایی های چاواهار بسازه خوبه یا ما بگیم نه چون آقای آفرین فیلمساز محلی هست و مثلا با موبایلش فیلم میگیره جسارت نمی کنم به فیلمسازه ولی مثلا چون آفرین بومی هست حتما با آفرین کار کنیم کدومی که اثر بخشیش برای جامعه و مردم ما بیشتره؟ البته که من معتقدم یعنی اگر کسی اومده مثلا ما پارسال برنامه ای رو با یه دوستان شروع کردیم این موضوع خیم شبازی رو اون خیمه شب‌بازی الان تبدیل شده به یه سری عروسک های محلی و های محلی. روز اول خیلی از عزیزان اعتراض کردن که آقا مگه ما خودمون نداریم چرا اینا؟ خب خیمه شب‌بازی یه قاعده و یه فرمولی داره در همه جای حداقل در ایران یه اصالتی داره. اونطوری دوستان وقتی اومدن گفتن آقا ما میخوام بریم تو مدارس غیر خیمه شب‌بازی انجام بدیم گفتم اشکال نداره من حمایتتون می‌کنم منتها یه شرط دارم. گفتن چی؟ گفتم از اردو بهش میای تا پایان مدارس کار می‌کنید. منطقه مهم ها که اومدید با عروسک های محلی و داستان های محلی میاید. خب این اتفاق خوبی یا بدیه اینا ترال هم به نظر شما راشون ندیم یا نه بیاریم که اونا هم تجربیت شد الان دارن برنامزی می‌کنن برای کلاس آموزشی که به معلم هنر مدارس راجب داستان های خیمش عبازی آموزش بدن کلی کتاب و داستان گرفتن به آقای بحار بحث شدن و با خیلی از دوستانی که تو این زمینه تجربه دارن، بحث شدن دارم یه کاری انجام میدن. <تصفيق> یا اگر یه فیلمسازی بیاد مثلا فیلمساز فیلمساز به بیاد در کنار دو تا چهره ملی، دو تا بازیگر مهم کنارش بازی کنن خوبه. یا نه یه فیلم رو خودمون در اینجا بسازیم که خودمونم نبینیمش. کدومیکیش بهتره؟ چرا نه، پرداخت نکرده. قرارداد شفاف شده. پس گرفتیم اون مبلغ رو. کار نکرده پس گرفته. اشکار نداره. اگر اگر اگر فیلمساز بومی هم بیاد، پیل پول بگیره. نه، اینطوری نیست. این بیانصافی نکنید. نه، این بیانصافی این بیان اینه که بگید آقا هم اولا که ببینید، اولا اولا ببینید دوستان، سازمان منطقه آزاد چابهار مسئولیت اصلیش هنر نیست. من خواهم اینه خر. من جسارت سرت دوستان ما در اجازه بدید. دوستان ما در فرهنگ و ارشاد خیلی زحمت میکشن. واقعا قابل تقدیره. اما یه لیستی در بیارید از برنامهایی که وزارت فرهنگ و ارشاد در چابار اجرا کرده و برنامهایی که منطقه از اجرا کرده. این بی که بگیم چون ابوالفضل هم یه داستانی رو قرار بود کار کنه نکرد به شلوک کردی فز هم شده قرار دادهش. چون کار نکرد. اگه کار میکرد حتما کار پربینندهای میشد. حتما کار ارزشمندی میشد. اما کار نکرد بومی اگر کار نکنه ما جلوشو خواهیم گرفت شمبل و مگه نیومد به عنوان کار اجرایی کار کرد حمایت نکردیم. یا اون فیلم یه فیلم ساز دیگه بود توی چیز بریز کار کرد دیگا؟, دیگا دیگا آره اون کار کرد سازمان حمایت نکرد فیلم آقای بحار رو که اومد اون مستندساز اومد کار کرد مگه سازمان حمایت نکرد اما توان سازمان دیگا. خب کنم شما در زمان من بوده؟ نه، ولی چون ما ب... آ... من خواهش این دل... عزیزم بپذیرند که نگاه سازمان نسبت به مسائل اجتماعی تغییر کرده تکلیف بر خودمون داریم که آقای ترکش میرفته اینقدر اجرا میکرده در سازمان و انتقاضا شما راست یت بله صحبت کرده با من صحبت کر دے باش وا اے بنا تو من اگر نه نه اصلا شما اگر نه من جان نداری من گوشتن نه یه که اصلا من دقای موضوع اصلا ببخشید بلوچی مشموه موتی جنده تو گتوانیم برین مهمانی کلما نیلی در نبرو بانیده این سیکن ایشان دیگه همه تیل چی هوننه نگه سیستمان بارد آفازه مبهن نسو آفیل میکپرمندیم داتاشکیم موشی گفر کنه مان وقتی راو دیکن دگران شام دهیم ای همه داستانی ما آینه جن دگر گوشت مان لازم نایی شوید شام بودم مان شوید راو تی شام دهیم دیستو فیلم آبتا هم فیلم اگر دو دهده گرد کنان اولیگا که چند ماه که منطقه عزاد علیکی سازمان تا جلسه با ایو اجکار که منی جن که اشارتها اوڈان وستا چیویتا ما بلوچی اوشا اوشی کے قرسی کے مارا وارتا سادی کرا ترسی میں شار اونرمند کے استین ما وستا گیا واج کارا جار نجا گیا بلے آنچی بی میری دیتا گیا بطلب کی اتکیا امایتی ناکوتا گیا چیزی ناکوتا گیا نی میں اونرمندان زیر تحا میرینکے آمان روا جنگر رو گئی برش آم گیر آواز من من شهر اتحا که هر کتب بند زان نبیتین که ایک اونر سازمان منطقه آزاد منی شخصه یک من نه نا شاوار اتحا بازی اونر بند اتحا دستی گبتا اول بیان که موطر وقت شکر بکنه ما وقت پاکوه بیم که رنده بی دیکھ که گلیا بکنه که منطقه آزاد مرا اماتنه کنه موشکل دار بیگه دیگه که منطقال پر چو مره ماتنی کنید سبب ایچید، ایلت ایچید مان فازا مجازید سازوان منطقال ساکوباز ناگد کنید مشکل چه منواتار بی تا که موان نیات که ماشکارنی کنید مان فکو تا وستگی آ, ما آ, وستگی که وستگیم وڈا چیا مان که مدیر ارچه بیترم من نیت که واله ما که افتخار کهنه کهبه واجه نزیکه کپپې کت بکنه بیا و پیش ره جشنواره بدارې جشنوارې ملسن بیت هم واجکا نمرې که ماشمر و طار چې چو پېشتاشت نغد انتقاد بهکنې ګله بکنې بله برې وتي جنده شر بکنې و طاره هنر یا هنرمندې پېش بدارې رنده وړه ماشمر حق کاست ما گپ جد کنیم میں شما گپ گوشتاریم با پا دپ کسی هنرمن نبی، پا گپ پا جنگ و پا انتقاد کام نبی نوید ایمانی نظر احسان شاوش دکتر نکته ای رو بگم همین الان که جلسه تشکیل شده و از اینجا حضور دارن، پینامایی که داره بر ما میاد میگه چرا خاموش این جلسه رو تشکیل دادین چرا ما جوون ها رو دعوت نکردیم؟ یعنی این اتفاقات میافته یعنی این خواهشی هستش که ما از شما داریم پاسخ بدین که این دعوت دعوتی هستش که شما انجام دادیم ما اینجا مهمان شما کرد ببین در تو خوشبختم. این شانس خیلی بزرگی که شما آوردین من خودم هم جوونمیهیه حقه چیزی هم داره. تمام های مو که سفید کردین شما ها ولی خب زبونی ببینید دوستان واقعیت اینه که عرض کردم بازم هم, هم حق و با هم دیگر صادق باشیم بپذیریم در کنار هم با هم کار کنیم اشکال نداره نقدم بکنیم من اتفاقا استقبال میکنم های ترکش رو بخاطر نقداشون من خیلی دوست دارم ولی واقعا اون شب آخری که جشنوار اینجا بود و اون اجرایی که نسیم و تیمش انجام دادن یا خود ترکشن اجرایی که داشتن واقعاً کیفیتش با سه سال قبل اون برنامه هایی که ما داشتیم متفاوت بود من دیگران نگران نیستم که اگر یه برنامه ای در منطقه انجام بشه من زنگ زنم بچه ها بیاد اجرا کنن با آرامش میشینم نگاه میکنم در حالی که من روزای اول استرس داشتم سختم بود هزینه هم سازمان پرداخت کرد در اون نوروز اولی که جشنواره رو ما بومیش کردیم اگر خاطر دوستان باشه خیلی هواشی و مشکلات زیادی رو ما در مجموعه داشتیم تجربه اول بود به دوستان نخورده نمیگیرم ولی اون روز هزینه کردیم فرصت دادیم دوستان بیان خطا بکنن تا بیان موزن و امروز انقدر قوی عمل بکنن این فقط در یه حوزه هنری خیلی ساده است در همه حوزا همینه من معتقدم در حوزه صنایع دستی و سوزندوزی الان کسی نمیتونه راجع به سوزندوزی جامیر تو همه برنامه‌های ملی امروز سوزندوزی حضور داره ما خیلی از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها الان هدایایی که دارن میدن سوزندوزیه در نهاد ریاست جمهوری گاهن هدایایی که به مهمانان خارجیشون دارن میدن سوزندوزیه باید. کار شده روی موضوع از سوزندوزامون الان مثلا تو همین نماشگاهی که امسال بود دیدید کیفیت کارا چقدر تغییر کرده بود یه کاری منو دیدم خانم جمارزی واقعا کیفیت بالایی بود و مثلا قیمتی روش گذاشته بود که من لقه خیلی گرون بود نتونستم بخرم ولی لذت بردم که هنرمند ما صنعتگر ما تونسته به این سطح از کار برسه که خیلی با افتخار بگه قیمت این تره من 5 میلیون تومانه همون 500000 تومنم هم با ترس می‌فروخت قبلا ولی الان میدونه این اعتماد به نفسو پیدا کرده این فضا رو برای خودش باز کرده که بتونه در واقع اقتصادش رو فعال بکنه اعتقادم اینه که فرایندهای توسعه فرایندهای ایستایی نیستن به این معنا که همین الان تصمیم بگیریم همین الان یه اتفاقی بیفته همین الان یه تغییری ایجاد بشه نه اینها یه فرایندهای تدریجی هستن در طی زمان باید کار بشه اتفاق بیفته تجربه بشه تا برسه به یه سطحی که بر حال به اون سطح از بلوغ برسه که بتونه کار خودش رو پیش ببره و نیازی به مجموعه و حمایت سازمان همین جوونا که این کلیپا رو درست میکنن اینا روز الان کارای خیلی حرفه دارن انجام میدن که توی خیلی از رسانه های ملی دیده میشن. کار اوبرشون که همینجا اینجا ما انجام دادن برید ببینید ببخشید بهجان چه افتضایی بوده؟ ولی الان کار دارن در سطح خیلی عالی انجام میدن. این فرصت برای همه شما فراهمه. اینکه من به شما بگم آقا نه دیگه ما اصلا از فرداد در سازمان میبندیم از بیرون میگیم هیچکس نیاد فقط شما کار کنید نه من این کارو نخواهم کرد. اما اطمینان منان داشت هر کسی بخواد اینجا کار بکنه من شما رو کنارش میذارم. میگم جوونای ما هم باید یاد بگیرن باید در کنارشون شما اد اینجا چند تا هنرمند میهمان داشتیم با همه خیلی از این هنرمندای ما تکلیفشون کردم روزانه ازشون میپرسیدم کیا رو دیدین با کیان نشستین با کیا صحبت کردین الان خیلی از دوستان ما ارتباط دارن از هنرمندای ما با همون آدمایی که اومده بودن اینجا و خیلی‌ها گفتن آقا اومدن اینجا بخورن و برن ارتباط دارن، دارن خدمت میگیرن، دارن کار میگیرند، دارن انتقال تجربه میکنن این فقط در یه حوزه هنر حالا چون دوستان و هنری صحبت کردن من میشدم. یا مثلا مجموعه دستیاری به دستیاری آقای ارسلان جان، الان بچه هاشون تیم میشون همه محلیه تو منطقه. کریمو می کل کریم میش نسی؟ کل کاراشون کریم در انجام میده. پیمانکارشون محلیه خودشون کار پیمانکاری نمیکنن، دارن مدیریت میکنن رو و. قرارو واقعا همه کارکناشون به جز اخیراً شما فشار آوردن که یه سری از مدارس باید به اول مهر برسند خدمت شما عرض بکنم که یه سری پیمانکار از بیرون آوردن وگرنه همه مدارسی که ساختن پیمانکارشون محلی بودن بعد اینا فقط مدرسه ساز نیستن من سه تا محور دادم حالا بذار تبلیغات اونا رو یکم بکنم مدرسه سازی مدرسه داری مدرسه یاری در حوزه مدرسه یاری فقط رو کیفیت آموزش دارن کار میکنن معلم دارن میارن هزینه هاشون رو میدن اینجا حالا اسکانشون رو ما کمک میکنیم معلم هست در تهران نظر کرده زکات علمش مثلا یک ماه در روز بره یه جای کار بکنه اینا پیدا کردن این معلم ها رو میارن اینجا یک روز میبرن تو دشت برای معلم ها دارن به نظرن کار میکنن خواهش اینه که هر کسی با هر نیتی که داره میاد شما تصورتون باشه کن آمدن کمک کنن و با ذهنیت خودتون حتما در کنارشون قرار بگیرید و حتما کمک کنید که اونها هم کارشون رو انجام بدن خوشبختانه حالا به هر دلیلی اقبال عمومی خیری به منطقه خیلی خوب است من یه خاطری تعریب کامجننتتیکش فیلم نکردید دو سال قبل آقای یکی از بزرگران مهمان من بود در چاوار. رفتیم به سمت گواتر به چون با خانواده بود من گفتم که خب یه اتفاق راننده هم برمداشتیم من خودم رانندگی میکردم ایشون نشسته بود خانواده من و خانواده ایشون هم تو ماشین نشسته بودم ما رفتیم گواتر از آبادی گواتر که رد شدیم میسیریم بچه از او برداشت می اومد ها لخ بودن و خیلی هم اوزای نام این آقای وزیر به من گفت که بینایی به اینا من واقعا تجربه نکرده بودم، نمیدونستم من باعث دادم، بایست دادم بچه ها اومدن رو رکاب ماشین بلند شدن شیشت داد پایین کیف شده رو آورد که مثلا در به هر کدوم حالا یه پولی بده این بچه ها مثل ققاق افتادن به این کیفه و آخر سر این بند خدا دید کیفش دارد دستش میره فقط باز کرد کیف رو که بچه ها پولا رو ببرم ها پولا رو برداشتم بود در رو من اون روز خیلی حالم بد شد، خیلی نگران شدم اینا اثرات کارهای خیلی و دلسوزانه بدون برنامه و است. داریم، گدا پروری میکنیم. یا مثلا معبل مه که کیف و کتاب مدرسه ها داشتیم می دادیم توی مدرسه من رفتم یه بچه، مثلا قبل از ما رفته بودم بهشون کیف داده بودم کیفشو گذاشته و زیرش می گفت به من کیف بده ببینید اینها خوب نیست به نظرم یکی از اون موضوعاتی که در آینده برای ما از حضور این خیرین یا آسیب بزرگ برای ما اینه اینا رو باید مراقبت کنیم حالا راجع اینا بیشتر در آینده صحبت میکنیم من میخوام بگم که اومدن دیگران کار کردن خودمون مسائل اجتماعی حالا آقای بشکار فکر کنم متخصص این حوزه است یا دوستان دیگه که در این حوزه تحصیل کردن می‌دونن بسیار مسائل ظریف و حساس و مهمی هستن. خیلی باید مراقبت بکنیم ما اگر میخوایم کار اجتماعی بکنیم اول باید یاد بگیریم آموزش ببینیم اینکه که دلم میخواد کمک کنم کافی نیست باید یاد بگیرم که چطور کمک کنم که به اون جامعه آسیب نزنم فرهنگش رو آسیب نزنم رفتار و عادت اونجا رو تغییر ندم و بتونم اون شخصیت و خود باور بینیم ما این سندگرهایی که اینجا هستن واقعا خیلی محکم باشون برخورد کردیم. مهم برخورد خورد کردیم که الان در هر نماشگاهی چون ممعریزی کردیم کار می کیفیت ازشون نگرفتیم. وادار گفتم کار ازتون میخرم ولی کارتون هم باید به قیمت باشه هم با کیفیت باشه کار می کیفیت آوردن پس دادیم برای همینه که الان شما برید تو های مختلف می‌بینید می‌بینید کار با کیفیت از همین صنعت‌گرای خودمون. همین دیروز یه پیام یک شو برای من فرستاده بود در این نمایشگاه تهران. فروش خیلی خوب هم کرد و خوشحال بود برای من پیام تشکر فرستاده بود که شما باعث شدید ما توی نمایشگاه بریم و من الان واقعا فروشم خوب بوده خب اینا اتفاقای خوبی به شرط که درست رفتار کنیم در حوزه آموزش هم همینه در حوزه ورزش هم همینه ما الان مثلا دوستان میدونن تو فوتبال ساحلی پارسال ورودی کردیم اون خیلی بد پیش رفتیم امسال البته امس بهتر شد و ظاهرا بهتر شد ما تا یه جوری شده بود که بچه فوتبالیکدداد. من گفتم ما با, با کمک تون که شما کار در یعنی داردتون فوتبال باشه ما برای شغل شما یه کاری می کنیمیم درداازده نفرید هر کدوم تو یکی از این کارخونان معرفی می کنیمیم بر سر کار. فوتبال رو بر کرده بودن چ چسبیدیده بودن دنبال این و اصلا یه موضوع شده بود تبدیل به یه مضری شد یه مقط ای و یه مکافات جمعش کردیم اینه که من خواهشم اینه دوستان به همه جانبی اوعملن که من ساز منطغاضا نیستم. منجا من کردی هستم یکی مثل شما نشستیم دغدغه مشترک داریم و گرنه هیچ دلیل نداشت من از ساعت 7 بیام میشینم الان ساعت 9 از 7 تا من هفت تا اومدم از خونه رسیدم اینجا شدم از هفت و نیم الان ساعت نه. پس یک دغدغه مشترک مالی اونجا نشونده لطفاً روی این دغدغه‌های مشترک و این نگاه مشترک وقت بذاریم کار بکنیم ان این شورا حتما خروجه خوبی خواهد داشت و راجب به موضوعات و مسائل و دردقه هم همونطور که به حال قطعا پیش خواهد آمد حتما صحبت میکنیم اون اه اه من بهشون میگم سیل بند آقای بلدهش. ما بهشون میگی سرعتگیر. تو شهر ما بینه میگن سیل اون سیل هم که میگید واقعیتش منم معترضم بهشون به, به دوستانم گفتم منطق تعدادشون یه ذابطه ای هست که پلیس راهور تکلیف کرد ارتفاعشون ارتفاعشون رو من بحث دارم با شما مونتا بودن این سرعتگیرها الزامیه چون در همین مسیر چند تا تصادف صورت سرعت گرفته سرعتگیر نبوده سازمان رو جریمه کرده پلیس چون شما سرعتگیر نذاشتید تند رفتن تصادف کرده طرف فوت شده منجر به فوت شده ما دیه پرداخت کردیم برای همین گفتم آقا هر کجا شما بیا خط بکش هر کجا ما سرعتگیر می‌ذاریم ولی فردا کسی خورد مرد چنیمش از ما نگیرید اما راجع به ارتفاعشون من هم سوال کردم واقعا ارتفاعشون بلند بود داری گفتن یه مدتی بگذره یکم میره پایین نر میشه اگه نشود بعد میگیم حتما اصلاحشون کن به من قول دادن گفتن یه مدت چون جدیدم هست بکنم یه ماهی بیشتر می‌ذارنشون عزیز بکنید جان حالا یه اصلاحاتی حتما لازمه توشون انجام بشه باید پنهانترشون کنن و یه فرم فکر کنن که هم ماشین آسیب نبینه و هم اصلا به نظرم خسارات خیلی زیادی به ماشینا میزنه حتما این رو هم به عنوان یه من تذکر خودم از چون سرنیم بار خورد سخت تذکر دادم که حتما اصلاح بکنن ولی باز هم پیرو به این نکته که جناب علی اشاره کردید حتما تذکر می خب ما چون دیگه وقتمون خیلی تموم شده اگر کوتاه و مختصر دوستان تا نکته دارم بفرمایید که دیگه ختم جلسه بدم بله دارسی ہم شش. <تصفيق> آی دستیاری به تریو بزیفه نه. آ اعلام می‌کنم وو دکار کرده ما وو دکمک کشکنن. همیت جمعی تشکیل دهن. شروع کنن واشنامانو. آقای ما کمک کنن. آیا دکتر کارایی کاری کرده؟ هر کس شروع که یه جمعی مسئولیت قبول کرد شروع که کر ما کمک کنن. آیا دکتر یک کار یه چیز داره یک کاری مدرسه رنگ می‌کنن یک کاری می‌کنن؟ هر کسی در حوزه وشنامه ها و خود حاشیه شهر چاوار شهر چاوار خیلی درسته ولی ما ببینید دشتیاری را امنا دشتیاری چرا انتخاب کردیم؟ دشتیاری پایینترین ترین شاخصهای سرانه های در کشور رو داره پایین تر از دشتیاری کسی نیست شروع کردیم حالا وشنامه ها نظر داره یه تیمی تشکیل بشه از همین جمعونه خودمون کار را شروع کردن ما کمک کن. اسپارسا تم سال ما پینگیری زاد دگه بیتیه و داسپانه وا ایس سره سره ته پرماندیه ها بار ما بار کتابخانه شروع شروع وے اپ کو تابع کرتے ہوں اس فضا میں مستری مقتما دار استفاضہ کی نہیں متالانہ دار ہے تو توڑی ہے ابے عبداللہ کی کارو وہاں مقتل باغ زالو پیش کی ہے ٹھیک ہے چش آقا شپیت ڈیزائن مش مور کتابخانہ پول دے نفر 20000 تھام دے که کتاب نہ کہ توادل ہوتے مستازن کتابخانہ ہمیں جم شپیت ڈیزائن آقا تو کتابخانہ سازي اون بتنارو بزن. نه خراب. نه خراب نیست. نه خراب نیست. آره انا مت. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب فراشتون، همه‌ی بزرگان گرامی، وجدان عزیز، اول برای مدرسه، ب... مدرسه و این کتابخونه بگم که خیلی عذاب نیاز هست. دوست عزیزمون میتونن یک نامه‌ای رو بزنن به قانون فلسفی کودک و نوجوان. و روستاه های در واقع اون اطراف رو حالا اگر دریاری دارن یا مدرسه ای دارن اونها بیان در واقع پای اون رو امضایی بکنن بدن در تحبیل قانون فراش فکری استان اونجا برای هم کتاب کنه در واقع میان تخصیص میدم کتابش کتابشون میدم و همین یکی دو نفر رو پینی کنم اونجا مشغول بکنم یک سال هست که در واقع این آن این طرح اومده باید بریم کنم فکر کنم فضاش رو باید بسازیم بعد اونا برای تحجیز و کتاب کمک رو بعد کانون فکری آقای سر قرشد اشکال نداریم. ما کمک کنین به متهم مسیر مسیر قانونی خوب هم دنبال کردن شمار تلفن و آدرس شورای ملل شهری مسئول پیگیریش تو من نامه اینم دارم حتما اطلاعاتشونو بدید دوستام راهنمایی کنید که پیگیری کن با بعد یک من یک سری دوستان رو بگیرم شروع کردیم کارو الان دیگه بهونه نیست همه جمع شدیم اومدیم در حالی که یک سال پیش هم من یادم هست که ما نشستیم. همچین جلسی همه دوستان بودن، اکثر دوستان بودن اونایی که در واقعی یادشون نیست آره، بودن بودن و بس بر این شد که ما جوان های چاوار حالا سرانه ها رو بینه ما دوینه همه چی نگاه میکنی ما اقلیم خیلی یاد ولی ما بدونید بدبختی اینی که چی هم واقعی نداریم, نداریم. جوان های شهر همینجا مانشستیم باره ها توی همین امشب که در واقعی ما بخواهم هم هم دور با من میشه با این دست ونیو در واقع کسی بتونه خب کار کنه. چرا ما میگیم آقا تیم من، بیست نفر من؟ چرا, من، چرا تیم من، چرا تیم اون، چرا اون را نیست، چرا اون را مثلا انتخاب کنی؟ مگی ما هم... همه امپیر هم ما مگی همه با باندی هم کار نکردیم. یک سال دیگه پیش ما اومدیم با تعداد خیلی محدودی از ها همه امید روی این کار کنیم. و اینکه در واقع اکثر دوستانی که در مشکلات های در واقع اجتماعی دارن و کارهای اجتماعی رو فیلشتر انجام میدادن ما باباشون کار کردیم و میشناسیم بشیم هیچ نیومد اطلاع رسانی مگه،, مگه باید حتما به شخص مثلا گفته بشه که این کارم با... در بعضی از موباید گفته شده من لیست دارم عکس دارم، مسکیموشن دارم همین موضوعاتو دارم و اینکه که در واقع از اینجا هنوزم بیر نشده نشستیم پوشینگ میذاروام دیگه در واقع خندینی پلان کردیم پشت سر هم دیگه رفتیم فکر گفته خود شما ای کردی پشت سر هم دیگه هفت تا دیم هم دیوار تخریب کردیم گفتیم آخره اصلا کاری ها گفتیم از نرف کردیم پشت سرش کاری دیواره انجام نشد دوباره این حرفا زدیم دوباره رفتیم دوباره اومدیم دوباره این حرفا داره میزنیم خب این برگشتش دیگه, دیگه دیگه ما در واقع به جنون رسوندیم یک واقعیته که دیگه, دیگه, دیگه با... باید گفته بشه آرامش دیگه با اینکه کاشی از الان شروع دوباره یه دو بارم دوباره ما بریم بیرون دوباره این اتهام بیفته این خیلی بده. ما راستش باش گفتم ما راستینه اعتراض کردیم آقا چرا داند؟ تو دانش ما اجتماعی بودن رو یاد نمیگی تو دبیرستان ناظم و همیشه شیلنگ با دست چون بو میزن تو سرمون. آبل بس دیگه من سرش گفتم آقا ما حلوزم رو شلنگر مییاسته تا مجبور نباشیم به کاری کار انجام نمیدین. ما باد زندگی‌مون رو بخشبندی بکنیم وقتی که مسئولیت اجتماعی رو دریم قبول میکنیم یعنی ما یه تیک باد رو چرا ما تو خونه رو میشتسیم بگیم ما قیر بومی نگیم قیر بومی ما بیان همه هم دیگر رو میشتسیم خیلی ما، یه دقیقه تموم آره، همه ما میتونیم اصلا غیر ایرانی بودن خیلی از توستان رو سابه این چی این خیلی حرف بدیه ما الان ببخشن من یه اعتراضی به شهر دارم به ما دیگه شهرمند مثلا معناه اعتراض دارم چرا شهردار ما بومیه؟ به خاطر چی زمینای توی شهرdarkتون روشن میشه چرا بخاطر شردار به خاطر اینکه شهردار منم پسرعموی من بیاد به سرخاله من با فلانی دوست میاد دوباره میشه من دوباره من نگه میدارم اینو تا نفر بعدی بیاد، نفر بعدی میاد واسه دوباره من همیشه بیایم، بیایم، واقعا یک پارچه بودن رویال این کار سختی نیست چرا ما شعار داریم ببینیم همون روز سی 30 سالش جا خیلی بده ما بیایم چون این امتحان دادنیش استیم ما داری مامانی که خیلی مامان نه, نه, نه, نه فقط یه نه نه یه یه فقط خانم دوستی گشتند دست سپورت شما بله یه واروژانی کافی باشه خیلی خیلی خاص ماوش یه جو اما در خیلی خوب شروع شد و که کوتاه با ایشون 796 در یک پرواز این بخچوا رو دیدم به طور اتفاقی صحبت میکنن و اسم دکتر کوچی رو دادم دکتر پرواز پروازونه و من هم همردیف ردیف اینها بودم به همراه یک دوست سرمایه دار در شهرستان فامیلیش رو نمیگم از قته خاص این دوستا دیدم من دکتر معرفی کردم گفتم ایشون مدیر عامل متراژ هستن میتونید میشه کمک بگیرید این شکلی و جناب حسینی شامل ایشون با یک جوون 19 ساله تهرانی با پوشش بلوچی حتی کتونی که انتخاب کرده بود، سبکی بود که مردان بلوچ ما پوشیدن ولی. در زمانی که پرواز رسید به مهرباد، من اینجناب کشتم که اینا با بلوچی دست و پا شکسته خواهش کردم که اینا یک گروه جوون تهرانی شما که سرمایه‌داری راه و شرط جاده جاده به یه کمکی کن. نه ما این شکلی اینا گذشت. و تحقیقات کامل اگه بیان نقداری خیلی سازندتری بکنیم و حالا ما یه بارو رسم خوبی داریم صندوق بذاری عروسی حالا که بحث کمک شد هم 20 هزار تومانی که جناب علی فرمودین من میگم همین الان نتیجه گیری این جلسه بذاریم صمون خرد تا همین خانم امشب کتابخونه ساخته شه موکولش نکنیم خواهش میکنم به بعد و مسئله جیبگیری خواهش می‌کنم واقعا خواهش می‌کنم بذاریمش یه چیزی نمیم. میگم برای جیبگیری خیال همتون راحت باشه خب رنجان دکتر جن سواله، او کے ای ایشی که کے جلسه که ایرکنک یا یکی نشست ایشی یک مستری بی که شهره تا فحال باید اما دعوت کن که ای من زانه گلتا؟ بانی جلسه من نظرم، که من ایش که جلسه من دو نفر دو دو نفر ا منبر خدای شکر گران که من سنت اول من خانم سرحدی گو هفته قبل شما جلسه درخواست کرد دعوت کمه کو سر من ریاض و اوشت ی تھا جو من گوشتید عبدالحک عبداللہ تر خوب عبداللہ یک چیز من هوشم ک یک که یک درزبندی ما جلسه تو کا من رست عزیزا من که موقع تو هنر تا کار کو فعال من اندر پرچی oh. ها این واجکار که گوشتگاه اینکه ما یک سوال مهمه زامد کشتا درستش و دستر مکام من که هداوت کگم من ترا نایی تا تو زامد کشتا مشکل مناه اینکه من جا لسانیت کن دعوت کنم نبیته مشکل تراه اینکه تو دا منا داوت نوکتا من یا سوالی ما این داوت کنم نبتاوتا اینجا نا نا دکتر جام اقا اجازم ده کفایت مذاکرات خیلی ممنون ببینید نا یه نکته من بگم. بنی دوستان هر آنچه که اتفاق افتاده کوتاهی انجام شده قتل صورت گرفته از زمان حضرت آدم تا الان مسئولیتش با منه نه متأسفانه در مورد شورای جوانانم هر کسی هر کوتاهی کرده از یک سال و نیم قبل تا الان هر اشکالی وجود داره به من برمیگرده. شاید همین سآلی که ایشون من جواب دادم به من میگه کی دعوت کرده؟ من, من نمیدونم. من مثل شما آمودم تو این جلسه. خب حالا اجازه بدید، اجازه بدید. ببینید همین ها و جلسات ما رو به یه سری اختلاف رسوند و بر اساس اون اختلافات نشستیم امروز اینجا و در این جمع. به یک نقاط مشترک خوبی رسیدیم. از اینجا به بعد حتما رویرات قبلی وجود نخواهد داشتیم. یعنی یاد میگیریم تجربه میکنیم که در واقع یاد بگیریمیه مطلبی رو از آقا ظریف خوندم امروز. حتما دوستان برم پیدا کنند توی کانال خودشم توی اینستاگرامش گذشتهن که من کاملش رو پیدا نکردم ولی چکیده ای از هرخواش رو گذشتهن میخونم خیلی تناسب داره به اینجمع میگه صحه من در تلکس امیر کبیر، چهار اشتباهی که بیشتر ما در روابطمون مرتکب میشوییم. چهار اشتباهی که در روابط یعنی هم چیزی که الان ما مسئله داریم این رابطه میخواهد رابطه پدر و مادر با فرزندشون باشه رابطه معلم با شاگرد باشه روابط زن و شوهر باشه یا روابط بین کشورها. اشتباه اول گوش ندادن به یکدیگر و مجادله به جای گفتگو گوش ندادن به یک دیگر و مجادله به جای گفته بود اشتباه دوم پیش فرض ها درباره اهداف و برنامه های دیگران چیزی که الان ارسالان گفت راجب دستیاری پیش فرض داره مجادله و گوش ندادنم که کل جمع از اول تا آخرش مشمول هم همون بود اشتباه سوم همه بازی ها را برد و باخت یا اصطلاحاً حاصل جمع صفر دیدن میتونیم بازی بکنیم که هیچ کس بازنده نباشه همه برنده باشن بازی برد برد جا؟ بودیم من اشتباه چهارم پیشگویی هایی که خود باعث تحقق خود میشن یا اصطلاحاً پیشگویی خود کام من نفردم فیلمشو برای شما این دو سه من دو خیلی لازم دارم یکی این که ما اصلا گفتگو کردن رو گوش دادن گوش بدیم به هم دیگه مجادله نکنید گوش بدیم یک نکته مهم دوم هم بحث پیش فرض در مورد که هدف کردی امروز چرا تو این جلسه اومده همه شروع میکنن تحلیل ارام ولانی چرا کاندیدا شد چرا نشد در مورد اهداف اون یه سری تصمیر سازی میکنیم، نکنیم این کار رو یه روزی در یه جمعی، یه جمع دوستانه مثل اون قدیما که شما عاجبون بودیم چند تا دوست با هم تصمیم گرفتیم که دیگر قضاوت نکنیم آدم رو قضاوت نکنیم تا حالا تجربه کردید این کار رو یعنی با خودتون فکر از فردا فکر کنید بگید آقا امروز من هیچ کس رو قضاوت نکنم ب اصلا می این کار نکنید؟ کار خیلی سختید جا؟ تو هست نه؟ هست نه؟ نسبت تو بچه من ازمس جلسی پس شمه؟ جلسه جوانان و پوشش تشکیل داده راهتمارا و شن کاپا یک وردی من دو تا مطلب بگم وقت جلسه بزشتر. خیلی گذشت یکی از اون موضوعاتی که خیلی مهمه و من حتما تاکید میکنم پایبندی به وقت, وقت. که زمانی انتخابات رو مشخص نکردیم یعنی این پیگیری تا چه زمانی باشه که ما از سمت سازمان پیگیری کنیم یه تاریخ زمانی مشخص داشته باشه که دیگه اینقدر سردرگمیان به وجود نیاد و این دومین مطلب که خیلی از موارد بابت این دوستان گلهای مندن میگن حمایت نمیشیم چون که دیگه چند سالی که ما در این همه به هم چچک گفتم میگم یار ما انتقاد کنیم، من که اصلا انتقاد نکردم نمیشه توی سازمان منطقه از زمانی های چاکرزی بودن قبلش های بلوچ بودن همه این دوستان من مطرح کردم این مسئله که شورای داوری برای طرح که توی سازمان منطقه تو حوزه اجتماعی گردشگری داره انجام میشه که جوانها با هاش درگی هستند بیان یک شورای داوری برای ترهادش داریم این حقیقت داره که آقای علام دادزگی داریم میگه که واقعا مثل کشیه میشه مثلا ما جشنواره مدل باس اومدیم کار کردیم این گلایه که شش ماه هنوز پولی که مال جا بچه های جوان مدن کار کردن هم داده نشده این متاسبانه مشکلی که تو سیستم اداری سازمان منطقات هست اگه ما یک نامه را از شما آقای پروی دستور بگیریم با شیش ماه میخوابه دیگه فکر شما کنیم که ما از مدیر شما شروع کنیم برسیم به معاقلت برسیم نم به آقای ایکس و آقای ایگر بعدم که معلوم میشه نامه ایمیل شده یعنی متاسفانه یک سیستم معیوبی داره اینجا که سازمان منطقه باید این سیستمش رو درست کنه الان بحث حمایت از طرح اگه شورای داوری رو شما تو همین جلسه تشکیل کنید که سازمان منطقه ذات تجربه حداقل آدمایی که طرح میارن بنشینن سرییمز با مسئول مالی شما با مسئول حوزه اجتماعی شما با حوزه گردشگری شما بنشینن صحبت کنند و طرحشون دفاع کنن که آیا واقعاً این دو تومن واقعا با اینقدر نیازه یا 10 میلیون تومن نیازه یعنی عملاً این مسئله فکر نمی‌کنم این تشکیل یک شورای داوری کار سخت بشه آیتی گزین ما چند بار این مساله رو مطرح کردم ولی متأسفانه حل نشد چش من میگم حتما البته قبول دارم با شما موافقم فرآیند ما خیلی کند و خسته کننده است خود من ها هم خیلی با تا داخلی ما خسته میکنه با شما همه من تا نمیدونم این شورای داوری چه کمکی میتونه به ما بکنه در مورد همه طراح. ببینید سازمان سری و وظیفه و معمولیت داره باد انجام بده. در مورد کاری که مربوط به جوانان باشه یا موضوعات اجتماعی باشه، تو هم شورای جوانان براش فکر می‌کنیم. الان باز یه تصمیم جدید نگیریم. بذار همین یکی که تصمیم گرفتیم که به یه جای برسونیم، بعد اون رو یا تو دل این یا جداگانه در موردش فکر کنیم. من قول ندادم که بعد به قول‌های انجام نداده من اضافه میشه درسته میشه خیلی کمتر میشه اگر این حتماً. حتما در راستای کاهج گل مندی ها گفته بو میکنیم با هم مجادله نمی متشکرم متحکرم دوستمون آقای ملاشری از پارک المفنابری تو جمع ما هستم یادداشت دادن که نکته مخوام بگن از عبر جلسه سکوت کامل رو رایت کردن بر خلاف وضعیت دوستان ولی چند کلمه کوتاه فقط چون دیگه سه دقیقی واقعا مخورم جلسید خیلی متشکرم. من پس از خاشیه نمیرم فقط موضوعات رو مطرح می‌کنم که یادداشت کردم دوستان توی کومیته هایی که شما مطرح کردید آخرش به نظر من این میشه که همه دوست دارین که این دارایی فکری رو تبدیل به ثروت کنید ما توی پارک مفهنه های کارون اینه که دقیقا مشکلات شهر و یا استان رو پیدا کنیم و بیایم براشون راهکار بدیم و در نهایت اونا رو تجاری کنیم و محصولشون رو بازار ما از تمام کمیته ها خواهش میکنیم و استقبال میکنیم اگر تو هر زمینه‌ای مشکلی برای حل پیدا کردیم به کار مراجعه کنم کار با تمام توان ازشون حمایت میکنه تو هر بوضعی چه فناوری باشه چه مویتنزی چه گردشگری ما حمایت میکنیم زمینه که برای دوستان هنرمندم یه پیشنهاد در ما یه دپارتمان تولید محتوا و خوانمایی و انیمیشن داریم دکتر در هستن سی دستگاه با بهترین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از اتاق دوبله و صدا داریم. میتونیم قشنگ از دوستان استفاده کنیم. بیا نواشنامه صوتی بدن و بدن و تولید محتوی قوید تو هر ای که دوست داشته باشند انجام بدن به شدت امادت می همونطور همینطور که امروز هم یک قرارداد بسیار خوبی منتر آزاد با آقای عبولوزنی بستن که اونم جا داره که واقعا بیان که شتابدنده تخصصی تو توی حوضه توریگ داره توی پارک افتتاح میشه زمینی که اینکه تو دانش آموزان دششیاری، نه تنها دششیاری، حتی تمام مناطق شنشین چابه ها، دوستان و تیم ها و هست مستقل تو پارک نفهناوری من این زمانت رو بتونم بیدم که به صورت رایگان، بیان و دانش آموزان اونجا تو هر حوزه‌ای تمامک کنم حتی آن هم داریم ما برنامههایی داریم تووزعه برنامه ریسی و رواتی که تو شهر چابهار داره برگزار میشه به صورت رایگان با حمایت پارک و من تا حاض و دو موردم هست که هفته جهانی کارفرینی از ۲ آبان سه آذره و ما برنامه های مفصلی برای کارفرینی و تمامندی و مردافز شما دوستان داریم میتونید شرکت کنیم زمینه که نمماشگاه بینلی فاضرگانی و تجار انتریت چابهار. که با حمایت منطقات ها داره بربزار میشه ما میتونیم تیم های استارت... استارتاپی که توی حوزه ترانزیت حمل و تجارت بچه ها و دوستانی که ایده داشته باشن حمایت کنیم و اتفاقا حضورم توی این جلسه به این خاطر رو که اگر آقای دکتر کردی موافقت کنن پار توی این نماشگاه شرکت کنه ولی توی حوضه متراج عرفه و حزینها با ما همکاری کنیم خیلی خوب میشه <سؤال> کجاست نماشگ 11 و 12 آبان زدن. خواهش. شما نماشا بیرمید تا خود ما تو خود چاوا آو. چون من با آقای براوی تو صحبت کردم گفتن 11 و 12 آبان در چهار برگزار میشه. بسیار خب خیلی متشکرم. آقای میلشریات تبلیغات پارک رو خوب کرد. منم برای اینکه ایشون دوباره تبلیغات نکنه تو جلسات ما، جلسه بعد مهمون دوستان هستیم توی پارک. تو دانشگاه. پارک ورشادی نیستم پارک مخنانی ولی وقتی مخنانی گشتی مالی هست نه کنار دست نشیمم یه ماهی که راکب فنی واجه کن کنار دست نشیمم پانادا نشسته شه ای جلسه یه جلسه ای رو دوستان با محوریت آشنایی با پارک همین همینجوریه حالا یه دعوت بکنن آوی میباشری اونجا دعوت میکنن یه روز یه بازدید از پارک و امکانات و خدماتی که پارک میتونه بده به من با همه ایده هایی که ما داریم پارک ظرفیت خیلی خوبی هست میتونه کمک کنه. تو حوزه دانشگاه تغییرات خیلی خوبی داشتیم. نگاه این صرفن دانشگاهی و کلاس درس تغییر کرده شتاب دهنده ها و بحث های کارگاه های به هر حال که بشه کار مشترک کرد، کوورکینگ پلیس ها و این موضوعاتی که به نظر من اتفاقات خیلی خوبی هست زیر ساختای خوبی در مجموعه دانشگاهی فراهم شده با پارک مخنابدی. که یه ماهی پیش ماه پیشون شده ظرفیتای خوبی داره به نظرم یه برنامه بذارید تو همین کانال یا سایتی که دوستان زحمت میکشن یه تاریخی رو اعلام بکنید همه عزیزان یه بازدید مشترک داشته باشن اگر دعوت کردن ما هم دوام بشیم یه،, یه وقتی بذاریم اونجا با هم بشیریم راجع به همین که چه از ظرفیت پارک چه استفاده هایی میتونیم در اهداف این مجموعه انجام بدیم به نظرم جلسه ای رو بذاریم خیلی خوب هست دکتر شما یه هفته پیش قول دادید نشست سمیمانه و دوستان ما داشته باشید من اینها رو نوشتم بهتون بگم ولی ده مشکلات زیاده فراموش کردم حالا بگم. نگه ها رو میاییم پیشه اسم... شد من بیام پارک با هم سابت کنم اسمس تقدیر دکتر ستاری زودتر از شما رسیده بابته؟ تشکر از شرکت هایی که دانشبانی هایی که انجام میدن تو ک او وظیفش تشکر کنه چون متولیه شما کنه نه خونش. تشکر کرده منم از شما تشکر میکنم ولی من فکر نیکردم باید حتما پیام تشکر بفرستم نه اون چون متولیه مستقیمشه و شما دارید باش کار میکنید بگید ولی من برای سنتگرام تورید کنندم حتما این کار میکنم به شما هم سر زنم. کنار در... ترکش نشستی داره اخلا رو در... خراب میشه نه بعد در رابطه ما قرار دادای حق بله. ما من جبونیم در انتقال تکنولوژی انجام بدی ما سهم داریم می‌گیریم به سمت چابهار. زمینا رو واگذار نکردی. الانم یعنی من, هم من هم هیچ قراردادی تو بکن امضا کردم. یه قرارداد, قرارداد امضا کردم ولی واگذار نشد. چرا؟ من نمی‌دونم. یعنی فعلا اونطوریش چیزی نمیشه به اصطلاح پیگیری کن. پیگیری پیگی که هم نتیزی نمیشه. ما اینجاش هم اینجاش نیست تو استفاده نمیشه. <تصفح> <تصفح> ای مجموع. این مجموعه این جنب کارای کارهای انجام میده. مسئله اقتصادیتون رو بعدم دارید خب دیگه؟ دوستان نکته دیگه دارم؟ با توجه به صحبت هایی میدشه ای پارک کردن یه بار دیگه بزنید اون با توجه به این هایی میدشه ای پارک کردن خب خیلی از بچه جوان چالوها رو دارن چون کار فعالیت میکنن خیلی ایده ها و بسیار خوبی هم دارن